و دیگر آزاداندیشان به حق و قابل تکریم گردد به امید آزادی و رهایی همه جانداران متن کتاب صبح دلانگیزی بود هوای مطبوع البته سرد زیر پتو حسابی خود را پیچانده بودم این خواب سر صبح در این هوا زیر پتوی گرم و نزدیک به بخاری چه لذتی داشت اصلا دوست نداشتم از خواب بیدار شوم وقتی ساعت به صدا درآمد با اینکه چند دقیقه بود طبق عادت چندی قبل از زنگ زدن ساعت از خواب بیدار شده بودم اما حس خواب و خواب ماندن تمام وجودم را فرا گرفته بود به سرعت قبل از اینکه خیلی سر و صدا کند صدایش را قطع کردم چند بار خودم را سرزنش کردم که چرا قبل از به صدا در آمدنش حواسم پرت بود و باعث نشدم صدایش در نیاید خوابم زود میپرید هر اتفاق کوچکی میتوانست این خواب ناز را برهم زند حالا که در ذهن این اتفاقات را دور میکردم اصلا دوست نداشتم از سر جایم برخیزم لباس بپوشم تا به دانشگاه بروم امروز دلم یک خواب طولانی میخواست یک خواب در این سرمای مطبوع و گرمای دلشین زیر پتو دوست داشتم حسابی بخوابم بعد وقتی از خواب بیدار شدم آزادانه با فراغ بال تصمیم بگیرم که چه کنم. در همین حال بود که صدای درب بغلی را شنیدم این صدای آراز بود چه کاری دارد خواب راحت را در این شرایط به فراموشی سپرده و در حال رفتن به دانشگاه است هرچند منم هر روز همین کار را می کنم. ولی امروز واقعا حوصلهاش را ندارم در تمام این مدت چشمانم بسته بود حتی ثانیهی حاضر نبودم چشم باز کنم تا خوابم بپرد حالا وقت آن بود تا در ذهن روی برنامه کلاسی امروز تمرکز کنم اصلا خاطرم نیست چند شنبه است آهان یادم آمد خب درس های چشم نیست کمی بیشتر خودم را غرق در پتو و بالش کردم باد و دست بالش را بغل کردم و پتو را بیشتر به دورم پیچیدم سراخر در میان همین افکار به برنامه درس و دانشگاه بود که به خواب عمیقی فرو رفتم سلماز سلماز صدا در گوشم تنین انداز شد. اول خیلی آرام و مبهم، گویی بخشی از خوابم باشد اما کم کم بیشتر و بیشتر شد. سر با این صداها به خود آمدم. وقتی چشم باز کردم، مادر لبه تخت نشسته بود. خیلی نگران حال و احوالم بود. فکر می‌کرد شاید مریض شده باشم، سرما خورده یا چیزی شبیه به آن که امروز به دانشگاه نرفتم. این اتفاق عادی نبود و خیلی کم پیش می‌آمد که من از هایم شانه خالی کنم. حتی شاید در بچگی مدرسه رفتن هم از این اتفاقات خیلی کم میافتاد. برای مادر نگران کننده بود که امروز چرا نرفتم. و من که هنوز هم احساس خواب میکردم دوست داشتم بیشتر خودم را در میان رخت خواب غرق کنم و بخوابم. اول ساعت روی میز را نگاه کردم، نه صبح را نشان می داد. بعد از اینکه تصمیم گرفتم تا کمی بیشتر استراحت کنم به مادرم گفتم امروز کلاس ها تشکیل نمی شود. او هم خیلی زود حرفم را باور کرد. حتی جویای این نشد که چرا دیشب نگفته ای کلا اهل این حرفا نبود و آزادی عمل زیادی در زندگی به من و آراز میداد همه زندگیشان در آینده ما خلاصه میشد. مادر که با قربان صدقه زیاد مرا به میز صبحانه دعوت می کرد من که بوی نان تازه و چای قند پهلوی مادر داشت دیوانم می کرد در یک دوراهی قرار گرفته بودم که آیا بیشتر از این بخوابم و در تخت بمانم یا با مادر به سر میز صبحانه بروم و دلی از اذا در بیاورم به مادر گفتم شما برو من هم کمی بعد میآیم باز به رخت خوابم فرو رفتم خواستم دوباره بخوابم اما با چشم باز کرده و با مادر حرف زده بودم حالا میز صبحانه هم از سوی دیگر نمیگذاشت تا بیشتر از این به خواب فرو روم بعد از کلی کلنجار از جایم برخاستم و پیش رفتم وقتی از زیر پتو بیرون آمدم سر مادر سرمادرجانم رخنه کرد دندانهایم به هم کوفته شد این احساس را خیلی دوست داشتم محسوسم وقتی از جایم بلند می شدم، این حس دوگانه میان سرما و گرما و این رخنه کردن یک باره سرما به جانم و تسلیم شدن در برابر این سردی هوا و فراتر از اینها زمستان برایم بهترین اوقات بود بعد از اینکه صورتم را آب سدم دیگر خواب با آن سرمایه رسوخ کرده در جانم کاملا از وجودم رخت بست و آماده بلیدن مادر و سفره غذایش بودم پرخور نبودم اما صبحانه را خیلی دوست داشتم و خوردنش برایم لذت بخش بود قبل از اینکه سر میز بنشینم پشت پنجره رفتم و بیرون را نگاه کردم هوا برفی بود برف و شدتی ملایم در حال بارش بود خیلی سرعتش کم بود به طوری که هر چند ثانیه یک تکه برف کوچک و بیجان به زمین میرسید اما این سپیدی زمین و برفهای به مانده از بارش شدید برف دیشب زمین را زیبا و کرده بود. چشمانم با نگاه به برف بزرگتر و شفافتر میشد. شد به قدری شفاف که در هوا روشنی های معلق ریز بسیار می دیدم انگار از نگاه کردن به برف آرامشی می گرفتم و حالا در برابر خانه همه جا را برف پوشانده بود درخت ها چقدر چهره زیبایی به خود گرفته بودند دلم برای راه رفتن در برف لک زد دوست داشتم هر چه زودتر از خانه بیرون بروم و ای با دوستان تدارک ببینم تا دست جمعی به کوهی جایی برویم یا حتی پیستی برای اسکی یا هر جای دیگری که در میان آن برف باشد محف دیدن برف و هوای بیرون بودم که مادر مرا به خود آورد با دیدن ظرف شیر در دستش به یک بار شدم به یاد گربه هاف افتادم چهت حواسم پرت بود ظرف شیر را از دست مادر گرفتم و به سرعت از خانه بیرون رفتم مادرم مدام صدایم میزد کجا حداقل لباس گرم بپوش سرما می‌خوری ولی من با سرعت به سمت پارکینگ خانه رفتم مادر مدام دوباره صدام میزد. به کلی از خاطرم رفته بود ظرفهایی که در جایی از پارکینگ گذاشته بودم را برداشتم و به زمین گذاشتم داخلشان را از شیر پر کردم در گوشه‌ای منتظر ماندم که سر و پیدا شد مادرشان پیشاپیششان می‌آمد خیلی زیبا بود چند بچه کوچک که تعدادشان چهار تا بود به دنبالش بودند بیشتر اوقات دوست داشتم یکی از بچه ها را به دهان بگیرم و ببلم اما خیلی در وجودم از آنها ترس داشتم و همیشه تنها نگاهشان می حتی یک بار هم جونرت نکردم تا به آنها دست بزنم همیشه محفظی زیباییشان بودم حالا همیکی با هم شیر می از دیدنشان تمام وجودم شاد شده بود چند بار هم اشک در چشمانم جمع شد. وقتی شیرشان تمام شد تازه احساس سرمایه وحشتناکی کردم بدنم میلرزید. وقتی متوجه شدم بدون کفش پایین آمدم سرمایه بیشتری جانم را فرا گرفت و با ظرف شیر بالا رفتم مادر با دیدنم گفت چرا اینجوری میکنی؟ کنی؟ حداقل لباس گرم می پوشیدی؟ من با لبخندی به او پاسخ دادم و او در جوابم گفت بیا چای تازه ریختم بیا صبحانه را بخور عزیزم بعد از مختصر مرتب کردن خودم و شستن پاها سر سفره نشستم و شکمی از ازاده درآوردم. این همه علاقه من را مادر به صبحانه می دانست. همیشه در تمام دوران مدرسه هم میز صبحانه مفصلی در خانه ما براه بود. حالا چند سالی بود که مادر به واسطه بیماری شبها دیرتر می خوابید و ما هیچ وقت حاضر نبودیم او میز صبحانه را بچیند. مگر روزهای تعطیل و یک چنین روزهایی که این شاد باش نصیب شود. در روزهای معمول من و آراز یا پدر هر کدام که می توانستیم این وظیفه را به می گرفتیم. خیلی برنامه مشخصی نداشت، فقط دعواهای گاه و بیگاه بین من و آراز به وجود می آمد. و حالا خوردن این چای از دست مادر کدبانویی که دست پختش کاملا زبان زده همه بود خوردن داشت. اینقدر قد خوش رنگ بود که بتوان با قلمویی در دست به رنگش بوم نقاشی را تر داد و بر برام به وجود آورد من هر روز آنگاه که از غذاهایش میخوردم اینقدر از این حرفها میزدم که غند در دلش آب شود و ریسه رود. آنگاه بود که هزار لقب از آراز نصیبم میشد. همیشه بر سر تصاحب مادر با هم جنگ داشتیم. هر کدام یک بار پیروز این میدان جنگ میشدیم. حالا که دیگر از صبحانه فارغ آمده بودم و حسابی از خوردنش لذت برده بودم بران شدم تا برای بیرون رفتن و پیاده روی در حال و هوای دلکش آن برف محسور کننده چند هم پا پیدا کنم از این رو بود که شروع کردم به تماس گرفتم با دوستانم یکی دانشگاه بود، یکی بیرون رفته بود، یکی کار داشت، اما در میان انبوه این دوستان که همین چند سال آنها را پیدا کرده بودم، باز هم بودند بسیاری که همپا برای رفتن به اسکی باشند. از همان بچگی به شدت انسان اجتماعی بودم، دوستان بیشماری در طول عمر داشتم. تعدادشان همیشه خیلی زیاد بود، با تمام همکلاسیها که حتما دوست بودم. که در مدرسه و خیلی بنادرت بچهای بود که با من دوستی نداشته باشد. در محله هم همینطور با تمام همسن و سؤالها دوستی داشتم و این ماجرا به آشنا و فامیل هم کشیده میشد آراز هم دست کمی از من نداشت اما شاید من بیشتر در این بازیها درگیر بودم همین مایهٔ دلگرمی پدر و مادر میشد که وقتی تصمیم به خروج از ایران گرفتند نگران ما دوتا نباشند که چه سرنوشی در انتظارمان است چگونه میتوانیم در خارج از کشور در مملکتی غریب با همسن و سالان خود ارتباط برقرار کنیم تمام نگرانی های زندگیشان از همان ابتدا ما دوتا بودیم از همان کودکی ما را به کلاس های میفرستادند می به ویژه برای یادگیری زبان دوست داشتند تحصیلاتمان را در خارج از کشور بگذرانیم. همیشه به دنبال راهی بودند تا ما را از تمام نواقص و مشکلات ایران دور کنند. دوست داشتن در سرزمینی آرام بتوانیم درس بخانیم و پیشرفت کنیم. از این رو از همان ابتدا این رویه را پیش گرفتند و از همان بد تولد برای هر دو ایمان پاسپورت کشور مقصد را گرفتند. پدرم انسان مرفه بود. این ثروت خانوادگی را از همان کودکی به دنبال خیش یادگ می‌کشید. مادر هم از خانواده ای ثروتمند بود. این گونه دو خانواده همکفا هم وصلت کردند از همان ابتدا هم به خارج از کشور رفت آمد داشتند هر دوی ما را در آلمان به دنیا آوردند تا شهروند درجه اول آنجا محسوب شویم در آینده مشکلی برای ورود و خروج به ایران و آلمان برای برایمان پیش نیاید وقتی به سن و سالی رسیدیم که وقت رفتن بود هیچگاه حاضر نشدند ما را تنها بفرستند و خودشان هم با ما آمدند شاید آن روزها بزرگترین دغدغهشان این بود که ما در این کشور احساس غربت نکنیم و نتوانیم ارتباط درستی با دیگران برقرار کنیم اما همان روحیات نهفته در من و آراز باعث شد که خاطرشان جمع شود حالا که همه در این کشور چند سالی بود زندگی میکردیم هم من و هم آراز دوستان بیشماری داشتیم به خصوص من که تعدادشان خیلی زیاد بود این ارتباط در کنار درس که البته درس هر دویمان خیلی خوب بود قوت قلبی برای پدر و مادر محسوب می شد. که فکر کنند راه درستی را پیش گرفته و با تمام شرایط سخت غربت و دوری و دلتنگی کنار بیایند برای ما رفتن به ایران مثل آب خوردن بود گهگاه میرفتیم و در مجموع چیز زیادی رویمان فشار نمیآورد. شاید فقط همان اوایل که آن هم کمتر برای ما و بیشتر برای پدر و مادر غم دوری و دلتنگی بود ما که زبان را از خیلی پیشترها فرا گرفته بودیم به صورت با همه ارتباط برقرار می کردیم در ثانی در این سالها اینقدر آمده و رفته بودیم که با این فرهنگ و آدمیان ناآشنا نبودیم. پدر و مادر هم تقریبا شرایط مشابهی با ما داشتند، اما به واسطه بیشتر در ایران بودن و زندگی طولانی تری در آنجا بیشتر وابستگی داشتند. شاید پدر و مادر دورمانده از خودشان هم یکی از همین ها بود. در صورتی که ما هر دوی آنها را همیشه در اختیار داشتیم. هیچ وقت تعم دوری از آنها را تجربه نکرده بودیم بالاخره تعدادی از دوستان را گرد آوردم که بتوانم به اسکی بروم وقتی وسایلم را جمع کردم و با مادر خدافظی کردم در پارکینگ بچه ها و مادرشان را هم دیدم وقتی داشتم با اتومبیل بیرون میرفتم همهشان پشت در به پارکینگ انگار برایم دست میدادند و بدرقهام میکردند چند مدتی بود از شروع سرما به پارکینگ خانه ما پناه آورده بودند هر کدام از ما به نوعی به آنها کمک می کردیم. من خودم را نسبت به خوراکشان مسئول میدیدم پدر برایشان در پارکینگ وسیله گرمایشی گذاشته بود. آراز به شدت دوست داشت شیرنی و شکلات بهشان بدهد و مادر که همیشه بخشی از غذایمان را برای آنها کنار میگذاشت. من هر روز صبحها حتما برایشان شیر می بردم تا بخورند. اصلا دوست نداشتم حتی لحظه ای غذایشان دیر شود با تمام وجود همهشان را عاشقانه دوست داشتم. حالا همه به صف داشتند با من خدافظی میکردند اینگونه از خانه بدرقه شدم تا یک روز خوب دیگر را برای خود بسازم وقتی با اتومبیل از میان برفها رد می شدم دوست داشتم به سرعت پیاده شوم در میان این برفهای صاف که هنوز پایی از میانش رد نشده گام بردارم شاید یکی از بزرگترین لذت ها زمانی بود که روی برفهایی که هنوز کسی در میانش گامی برنداشته بود قدم بزنم احساس فاتح بودن تمام جانم را فرا دوست داشتم در چنین فضایی ساعتها راه بروم و به پیش روم های بسیاری را فت کنم. مصرورانه مالک جهان شوم بالاخره به سر قرار رسیدم تعداد زیادی از دوستان به دور هم جمع شده بودند آماده بودیم تا هرچه زودتر خودمان را به پیش و تفریح برسانیم لحظه ای که انتظارش را میکشیدم در برابرم بود با سرعت زیادی خودم را مانند فاتحان به بخشی رساندم که هنوز گامی میانش برداشته نشده بود در پیش و به فراز در راه بودم. دوستانم که کمی دورتر از من عقب مانده بودند. نمیدانم آیا آنها هم تا این هدین کار را دوست داشتند. شاید برای آنها این اتفاق تکراری شده بود. آنها اینقدر برف دیده بودند که ذوق مرا نداشته باشند. در ایران هم برف می‌آمد. یاد خاطراتم در ایران افتادم. یاد رفتن در کوههای ایران و قدم زدن در میان آن برفها که هرچند از اینجا کمتر بود اما حال و هوای خودش را داشت. یاد یکی از آن روزها افتادم، اما خوب به خاطرم هست که در آن سرما و برف چیزهایی می دیدم که قلبم را جریه دار می کرد. یاد آن کودکانی می افتادم که در این سرما هم برای به آوردن لقمه قوت و غذایی چگونه داغ سرما را به جان می خرند. آیا آنها هم احساس فاتحان را داشتند؟ آیا آنها هم می اولین نفری باشند که در میان برف ها راه رفته است؟ یادان دختر بچه ای افتادم که در یکی از همان روزها میان برف در حال فروختن آدامس بود وقتی پیشش رفتم و او را در آن حال هوا دیدم برایم احساسات او تحریف شده نبود نمیدانستم او چه حسی می کند و از بارش این برف چه حال و هوایی دارد ولی خوب خاطرم هست وقتی پیش رفتم تا با او هم کلام شدم تمام این احساسات درونم به یکباره مرد وقتی دیدم که چگونه از که افشهایش می و این سرما را در پاها حس می کند پاهایش زده، چه احساسی همه جانم را فرا گرفت چقدر دنیای ما متفاوت است چگونه ما از آمدن برف لذت می بریم و او دعا می کند که هوا سرد نشود و برفی نبارد تا از سرما به خود نلرزد و شبها از پادرد و یخزدگی آنها رنج نکشد چگونه برای اون سرما به بدی تعریف میشد و چگونه من در لباس گرم غرق شادی از باهودیش می‌شدم وقتی کنارش می‌نشستم او از روزهای سختش میگفت و تا چه حد دنیای ما از هم دور بود می‌فهمیدم تمام این فاصله ها را میدانستم از فاصله طبقاتی ثروت ما و میدانستم از همین جا سرچشمه گرفته است وقتی من از اون چیزی می‌خریدم او چه احساسی داشت و من چه احساسی چقدر دوخته برای من بیارزش بود؟ تمام آدامسا خرج یک ساعته ما میشد؟ وقتی او این دوخته را میفروخت با چه ارزشی به پیش خانوادهش میرفت؟ راستی اصلا خاطرم نیست از خانوادهش پرسیده باشم. اما حالا چقدر برایم مهم شده بود که بدانم او چه خانواده ای داشت؟ آیا مادری داشت تا دا مثل مادر من هر ثانیه نگران زندگیش باشد؟ اگر داشت چگونه راضی شده که او در این هوای سرد با این کفش های پاره به میان برف بیاید نه لذت ببرد که اندوخته ای را پیشگیرد اما خاطرم نمیآید که آن زمان تا این حد به این موضوعات ریز شده باشم و حالا تا این اندازه به این مسائل فکر می کردم. خوب به خاطر میآورم که همان روز هم ناراحت شدم فکرم مشغول شد دوست داشتم به او کمک کنم یادم هست که همه آدامزهای را یک جا خریدم و خوب به خاطر دارم، وقتی نوشیدنی گرمی با هم خوردیم، او چه احساس عجیبی از خود بیان می کرد. برای من چقدر یک نواخت و کسل کننده بود این خوردنها. من مثل همیشه و طبق عادت میخوردم و او دنیایی تازه به رویش گشوده شده بود. با جره جرعه آن تهم، تازه ای را می‌چشید. وقتی برایش کفش خریدم تا چه حد آن پول برایم بی‌ارزش بود؟ شاید در ساعتی آن انداز پول را با دوستان و یا برای کار پیش پا افتادهی خرج میکردم وقتی همان پول را برای دختر بچه کفش خریدم او چقدر از داشتن آن کفش لذت برد و چقدر برایش این اتفاق مهم بود چه تفاوت از زمین تا آسمان داشان هزینه کردنم چه دنیایی در برابرم ترسیم میکرد تا چه به زمین و هوا میرفتم و معلق در جهانی مجهول پاسخ از هیچ نم اما فاصله دانستن و فراموشیم خیلی کوتاه بود گهگاه به سراغم می آمد. آن اتفاق و هر اتفاق دیگری که در ایران و جهان دیده بودم به فاصله کوتاهی در رفت آمد بود اما هیچگاه اینها متن اصلی زندگیم را تشکیل نمیداد. حال باید به زندگی دل می سپردم در میان این کوه که پای آدمی را به قلب برفایش ندیده بود گام بر داشتم و فاتح این خاک غلم داد می شدم. دوستان زیادی که دوره کردند کردند و بالاخر خودمان را به قله رساندیم هرچند اسباب برای این آمده شد فراهم بود اما راه رفتن در میان این برف ها برایم لذت بخشتر بود شاید همین راه رفتن ها تا این حد مرا به گذشته ها برد که سرما چه احساس دوگانه ای را در میان آدمان به وجود خواهد آورد نه فقط سرما که خیلی از اتفاقات ریز و درشت دنیا هم به همین گونه خواهد بود وقتی به نوک قله رسیدیم خیلی احساس باشکوهی بود. همه شاد بودیم و به آمال آرزوها دست یافته بودیم. این متن زندگی بود و حال فرا از تمام حاشیهها، وقتی از نوک آن قله به پایین می آمدم احساس پرواز می کردم. بالهایم، چوبهای اسکی جانم را پوشانده بود. در عوض پرواز، در آسمان شیبی ناهموار به بالا و پایین جهان می جستم. سرما به درونم رخنه میکرد و نفس تازهی می گرفتم خیلی احساس خوبی داشت وقتی دهان باز میکردم و فریاد میزدم هم خیشتن را رها کرده و همین سرما به درونم لانه میکرد. تمام دردها و آتش درونم به چش برهم زدنی خاموش می شد و آزادانه به پایین می آمدم رها می شدم و هر چقدر این رقابت با دوستان و پیش افتادن را دوست می داشتم این رقابت از همان کودکی همراه هم بود تقریبا هیچگاه نمیتوانستم در رقابتی شکست بخورم یعنی تحمل شکست را نداشتم از همان کودکی هر موقع که پای رقابتی در میان بود دوست داشتم در آن شرکت کنم و همیشه بزرگترین رقیب حاضر در میدان آراز بود که حاضر به هر کاری میشدم تا از او شکست نخورم و وا مصیبت از آن روزی که در چنین رقابتی شکست میخوردم آن روز جهنم میان من و آراز بود او را به شکل دشمن میدیدم. و این در تمام زندگی و همه سالها و اتفاقات در برابرم بود وقتی به مدرسه میرفتم تنها یک نظر در سرم بود از همه بهتر بخوانم، بهتر بدانم و سرامده همگان باشم شاید همین روحیه درونم باعث میشد تا این حد در درس خواندن موفق باشم و هیچگاه کنار نکشم، از هیچ تلاشی کوتاه نیایم و این روحیه درونم باعث میشد شد که همیشه شاگرد اول و ممتاز باشم هوش سرشاری نداشتم اما بسیار تلاش می کردم و همیشه هم موفق می شدم اصلا تحمل شکست را نداشتم حال که در این سرازیری یک که تاز از همه پیش افتاده بودم باز هم درونم غوغایی بود باز هم خودم را در سکوی نخست و پیروز مندانه و این شیرینی پیروزی پایان این روز خوش در کوه اسکی ما بود سراخری که از هم دور شدیم و هرکس به خانه رفت وقتی به خانه رسیده بودم همه بازگشته بودند. پدر با دیدنم خوشحال شد و به سمتم آمد. عادت داشت که دخترش را با هر بار دیدن بوسه باران کند. من هم سخت در این نشف فرو رفته که باید از این فرصت استفاده کنم و تا میتوانم از بودنش خورسند باشم. برادری که باز هم با نگاه رقابتی به من چشم دوخته بود و سر هر چیز بزرگ و کوچکی دوست داشت با من رقابت و سراخر پیروز سرآخر باشد. حالا که میدانست امروز به دانشگاه نرفتم و با دوستانم وقت گذراندم، اوهی باز هم در این میدان از من شکست خورده و پرخاش کرد، دوست داشت را تلافی کند. در این رقابت عقب نماند. شاید هایمان یکی بود، چون هر کداممان در رقابت ها شکست می‌خوردیم، دنیا را برزخ می‌کردیم. هایمان به طول تمام این سالها در جای جای جاری و ساری بود. هر بار به واسطه ای اتفاقی سرباز می کرد و دوباره روابطمان را به جنگ میکشاند. سرآخر مادری که اطر پختنهایش یک شهر را دیوانه میکرد. هیکل توپل و مادرانهاش مرا به خود واامی داشت تا ساعتها در آغوشش بگیرم و بوس بارانش کنم. همینطور هم شد، به سمتش رفتم. این رفتم، اینقدر دادم و بوسش کردم که به صدا بیاید و مرا از آشپزخانه بیرون کند. پدری که از این همه عشق من نسبت به مادر شاید حسادت می کرد. هرچند که اصلا بروز نمیداد اما کم توجهی و بیمحلیهایش بیانگر احساسات درونش بود یک روز خوب دیگر را پیش بردم باز هم سر میز با تمام وجود از داشتن خانوادهام خدا را شکر کردم و از بودن و در کنار هم بودن لذت بردیم غذا خوردیم حرف زدیم درد و دل کردیم، وقت گذراندیم به شادی های من پرداختیم و از بودن در کنار هم شاد شدیم حتی لحظه گذر اومب را لمس نکردیم و سراخر که به برخت خواب رفتم باز هم در برابرم روز خوبی بود مثل تمام روزهای گذشتم با تمام عشق، با تمام احساس و با تمام لذات شاید تنها لحظه ناخوشایند در این دیرگاه زمان خواب همان فکر کوتاه دوباره درباره دخترک که حالو چه می کند. این رشته افکار شادم را به هم ریخت اما به زودی خوابم برد و باز همه چیز را فراموش کردم. کتاب فریاد اثر نیماش سواری بخش دوم زندگی مثل همیشه در حال پیشرفت بود و من هم سوار بر این قطار نباید از قافله اش عقب می‌ماندم. به صورت در پیش بودم. هر روز صبح زود از خواب برمیخواستم و به دانشگاه می‌رفتم. کم کم امتحانات همه آغاز می شود. من باید در این رقابت رو در رو سر بلند بیرون می آمدم. شاید محیط دانشگاه دیگر مثل دوران کودکی نبود اما باز هم در برابرم رقابتی تمام و کمال در پیش بود تا بتوانم از همه پیشی بگیرم و قدرت این را داشته باشم تا در این راه سر بلند به پیش روم از این رو برنامه زندگیم خیلی منظم بود صبحها باید به دانشگاه میرفتم. وقتی به خانه می آمدم بعد از کارهای معمول یک نفس سرم در میان درس و جزوه ها بود به سختی اوقات را میان مطالعه می گذراندم میکردم می کردم در این هدفی که در برابرم بود سربلند و پیروز باشم بیشترین راه رسیدن به آن را در همین خاندنهای مداوم می دیدم هرچند گاهی هم زمان فراغت نصیبم می شد به دیدن گربه و بچه گربه ها می رفتم. گاهی با مادر، پدر و آراز وقت صرف می کردم. فیلم تماشا می کردیم اوقات با دوستان هم به بیرون و برای گشت و گذار می رفتیم دوست داشتم با این کارها حواسم را بیشتر متمرکز درس ها کنم مثل تمام دوران گذشته این بار هم بیشتر از همه خودم در برابر خودم سربلند باشم این داستانی بود که به درازای عمر هماره در برابرم بود هر وقت به دوران امتحانات می رسیدم این کلنجا را مبارزه درونم بیشتر از پیش می شود. حالا هم در میدان این مبارزه بودم باید تمام تلاشم را به کار میبستم در همین میانه اخباری ملتحب از ایران برای من مخابره میشد هر وقت اخبار را میدیدم خبری از ایران و شرایط آن روزهایش میشنیدم پدر و مادر مثل بیشتر ایرانیان حرفهای زیادی داشتند اعتراضات بسیاری را در, در درازای سالیان بر دل نهفته گذاشته بودند کافی بود در محفلی گوشی به تا ساعتها در بارهش حرف بزنند. پدرم بیشتر این گونه بود بیشتر این درگیری ها را داشت اما در مجموع هیچ کدام دل خوشی از شرایط نداشتند و بیشترین دلیلی که حاضر شده بودند از ایران خارج شوند و یا از همان ابتدا برای تولد ما در خارج از خاک ایران تلاش کنند همین نارضایتی از شرایط حاکم بود پدر با تمام وجود اعتقاد داشت که در ایران سرنوشت معینی برای ما وجود ندارد. با اینکه خانواده متمولی داشت و هیچگاه در ایران شرایط بغرنجی را از نظر مالی سپری نکرده بود اما باز هم در ایران ماندن و زندگی ایرانیان را زندگی سوزی میدانست. بلق که جوانانی چون ما عمر و آینده را در آنجا بگذرانیم و به قول خودش هدر دهیم. خوب خاطرم میآید. و بحث‌های گاه و بیگاه عمو و پدر را که امو میگفت در هیچ جای دنیا نمیتوان ثروتی که در ایران میتوان کسب کرد را به دست آورد پر بیرا هم نمی گفت او سلطان این به دست آوردن ها بود در بین همه خاندان او ثروتمندترین به حساب می آمد. خیلی خوب میدانست که چه چیزی بخرد و چه موقعی باید که بفروشد از این رو در ایران هر رفاهی را که میخواست خواست در اختیار داشت و به شدت مخالف خروج از ایران بود برای تفریح خیلی به خارج میآمد اما زندگی را هرگز در خاک بیگانه نمیپسندید همیشه به پدر میگفت که چندین برابر پدرم در خاک ایران درآمد دارد خیلی کمتر از او زحمت میکشد اما برای پدری که عمر را در ثروت گذرانده بود پول موضوع باهمیتی نبود همیشه در جر و بحثهایش با عمو میشنیدم که او از زندگی آرامش آسایش را طلب دارد بیشتر از هر چیز به دنبال مقصدی است که در آن بتواند با خانوادهش راحت زندگی کند احترام داشته باشد ای را که میخواهد رقم بزند و به آرزوهایی که دارند برسند باز حرفهای امو که هر آرزویی را برای همه با پول می توانست عملی سازد واقعا هم راست بود هر آرزوی کوچک و بزرگ فرزندانش را عملی میساخت هرچند آرزوی آنها همه و همهش در میان پول خلاصه میشد اما حرفهای پدر و مادرم و خواسته های خواستهای مادی نبود بلکه احترام به حقوق انسانی بود محترم شمردن حق آزادی و زندگی بود خیلی پیچیده حرف نمی زدند مثلا یکی از حرفهای پدر همان حجاب و پوشش زنان بود که حال نمی دانم آیا مادر اینها را با او مطرح کرده بود یا خودش تا این حد این را مهم می دانست ما در ایران این شرایط را خیلی لمس نکرده بودیم در همان حد شال و رو روسری که به سر می‌گذاشتیم و حالا در این خاک فقط همان را از سر برداشته بودیم اما او اینها را موضوعاتی فراتر از این اتفاقات کوچک می‌پنداشت اما موضوع این بود که او برای حرفهایش حاضر نبود کاری جز این کند که در جایی در دوردستها ها فراتر از آن خاک سفر کند و آرامشی را که می‌خواهد در دوردستها ها بجوید نه در جایی که زاده شده بود تقریبا در تمام زندگی هم اینگونه بود اگر در خانه چیزی مطابق خاصش نبود خودش را کنار میکشید نمونه ساده ترش همان غذا و سر میز آمدنش برای مثال اگر مادر غذایی پخته که او دوست نداشت فقط نمیخورد و در پی تغییر آن یا اختار به مادر و این داستان ها نبود در زندگی هم همیشه این رویه را پیش می گرفت و از آن راضی بود حالا که خبرهای داغ تازهی هر روز از ایران به گوش می رسید و خیلی مشتاق به شنیدنش نبود میدانست مدتهای زیادی است که خودش را از آن خاک و شرایطش کنار کشیده و زندگی آرامی فرسنگها دورتر از آن خاک برای خود و خانواده ساخته است اما با تمام این تفاصیر اخبار را دنبال میکرد و همیشه برایش جالب بود تا بداند در خاک اجدادی چه اتفاقی در حال وقوست گهگاه هم نظرات کوتاهی میداد او تقریبا تنها عضو خانواده بود که بیشتر از خود به این رویدادها اشتیاق نشان میداد هرچند اشتیاقشم خیلی زیاده نبود، اما در برابر باقی ما که از او کمتر به این اخبار علاقه نشان میدادیم علاقه او بیشتر خودنمایی میکرد. من و آراز سخت مشغول درس امتحان هایمان بودیم. کمترین توجه را به غذایان نمی کردیم، اما حالا که بیشتر فکر می کنم، خاطرم هست آن روزها ایران وضعیت به شدت ملتهبی داشت. مردم حرفهایی میزدند خوااست داشتند و گهگاه اعتراضات عمومی آنها به گوشمان میرسید. مشکلات زیادی گریبانشان را گرفته بود فقر تبعیض فساد حکومت اینها و بیشتر از اینها را میشنیدیم پدر گهگاه دربارهش اش حرف هایی میزد اما با دنیای آن روزهای من این حرفها ها فرسنگ ها فاصله داشت و معنایش را به درستی لمس نمیکردم خاطرم هست شاید وقتی پدر از تبعیض و فقر میگفت خاطره آن دختر در زمستان به ذهنم می آمد و شاید چند دقیقه ای حواسم را به خود جلب می کرد. اما آنقدر برایم مهم نبود که در آن روزها و اتفاقات ریز شوم و بخواهم که بیشتر بدانم شاید از ابتدا هم اینگونه بودم در مجبور دوست داشتم خیلی درباره خیلی چیزها بدانم و بخوانم. دوست داشتم در همین دنیای ندانسته ها باقی بمانم و یا شاید چیزهایی که میخواستم بدانم همین هایی بود که در برابرم نقش بسته بود. زندگی شخصیم را بیشتر دوست داشتم. دوست داشتم بدانم درسهایم به کجا میرسد چه سرانجامی برای آنها که این طریقت درس خواندن را سپری کرده‌اند پیش آمده است. بیشتر دوست داشتم در آینده نزدیک با تحقق رویاهایم روبرو شوم، درسم را کامل کنم و سرآخر به یکی از دانشگاه های اروپا بروم و در آنجا مشغول تدریس شوم. این یکی از روی های بزرگان روزهای من بود و بیشتر از هر چیز علاقه داشتم بیشتر از این مسیر مطلع شوم تا شرایط در ایران و اتفاقات و عضایی که خیلی سخت آنها را می شناختم. از فقری صحبت به میان می آمد که کمترین شناختی از آن را نداشتم. شاید سیمایش را همان دیدن تکت دیگران و خیابانهای شهرمان در برابرم تصویر میکرد. آن هم منی که بیشتر در خیابان شمالی و بالای شهر پرسه میزدم. تازه با اتومبیل و درون آن و خیلی برایم هم همه چیز دور از واقع به نظر می رسید زیاد به های پایین شهر نرفته بودم. آخر کاری آنجا نداشتم که بروم. شاید تنها وقتی که مجبور بودیم برای خاکسپاری و مراسمی از این دست شرکت کنیم. ذره این تصاویر در برابرم نقش بست آن هم در بین آن اتفاقات شخصی زندگی و آن غم از دست دادن. این موضوعات خیلی به چشمم نمی‌آمد. وقتی پدرم از هجاب میگفت تنها خاطره در برابرم همان روزی بود که در ایران به واسطه بلند گوش کردن به موسیقی در اتومبیل با پلیس روبرو شدم که به من تذکر دادند و به هجابم اشاره کردند. سرآخر اتومبیل را به پارکینگ بردند اما چندی بعد پدرم چون کوهی در کنارم بود چقدر به صورتی مشکل را حل کرد و من لحظهی به هم فکر نکردم و درگیرش نشدم. وقتی بیرون از ایران شرایط را میدیدم و آزادی های فردی آدمان را درک میکردم جمع و تفریقش برایم ساده نبود اما ما که تا این حد درگیر آن اتفاقات نبودیم و حالا در سرای آرام به دور از تمام تنشهای ایران زندگی میکردیم نیازی نداشت با کسی گلآویز شویم تا حقی را باز ستانیم هرچه میخواستیم در برابر مان بود و حرفهای آن جماعت خیلی به گوشمان آشنا نمی‌آمد. اگر پدر درباره آنها صحبت می کرد، همیشه جماعتی را ترسیم می کرد که فرسنگ ها از ما دور هستند. درباره کسانی صحبت می کرد که حتی وقتی درون کشور و با هم یک جا زندگی می کردیم پاس هم از هم فرسنگ ها فاصله داشتیم. شاید به فاصله چند خیابان بود و یا چند خانه اما دنیای ما فرسنگ ها از هم فاصله داشت و اینها برایم هیچگاه قابل درک نبود. زندگی هم در پیش هم بود. آن خانه زیبا که در یکی از بهترین نقطه های خیابان در یکی از بهترین شهرهای دنیا قرار داشت با هر ای که آن روزها من از دنیا داشتم پدر و مادری که همه چیز را برایم عملی می‌کردند برادری که خیلی اوقات بیکاری و تفریح هم را با جنگ و دعوا و شیطنت در کنار او سپری می‌کردم و این یکی از بزرگترین شیرینی‌های زندگیم بود دوستان بیشماری که هر لحظه با اراده من در کنارم بودند و در پیش روی دانشگاهی که پلی برای رسیدن به آرزوهایم بود خواندن دروسی که آنها را دوست داشتم چون هر لحظه مرا بیشتر به هدفهایم نزدیک میکرد خیلی روزها ساعتها به آیندهام می دوختم خودم را در لباس استادی تصور میکردم که در یکی از بهترین دانشگاههای جهان دانشجویان نخبه دنیا را تدریس می کند، چه عزت و احترامی داشت چه شخصیت مفیدی برای جامعه محسوب می شود. همیشه و همیشه این تصویر رویایی در برابرم بود میدانستم برای رسیدن به با آن باید این مسیر را درست و هموار به پیش رفم همه اینها باعث می تا در این روزهای فارغ از تمام اتفاقات و رویدادها از هر نوعش که بود دل به درس برای پیش فراهم دهم ساعتهای زیادی را در اتاق بگذرانم یا به همراه دوستان به کتابخانه بروم تمام دروس را بارها و بارها از اول به آخر و از آخر به اول دوره کنم چون میدانستم راه تحقق این رویا گذشتن از میان این صفحات است و با چه ممارستی به این کار عشق میورزیدم. گاه گهگاه هم میشد تصویر آن دخترک دوباره در برابرم بیاید به آرزوهای او هم فکر کنم آرزویش چه بود؟ به چه چیز فکر می کرد؟ حالا چه میکرد و در آینده چه خواهد کرد؟ آیا او هم مثل من آرزوهایی در سر پرورانده بود؟ اگر چنین آرزویی دارد چه کسی میتواند او را در راه رسیدن به این آرزو کمک کند؟ و یا شاید آرزوهایش کوچکتر از این هاست؟ آیا هم میخواهد کسی پیدا شود تا آدامسهایش را یک جا بخرد؟ آیا حال همچنین کسی در نزدیکش هست؟ بیشتر این فکرها زمان خواب به سراغم سرا� بعضی اوقات بسیار دور از هم و برخی اوقات دنباله دار اما شاید این تنها فکر متفاوت آن روزهایم بود همیشه میانش دختره که آدام به چشم میخورد و مرا به خواب فرو می برد. فردا باز هم همان روزهای گذشته در برابرم بود باید بیشتر تلاش می کردم تا به آرزوهایم دست یابم باز هم زندگی با همان فرمان در پیش بود و روزها یکی پس از دیگری در حال گذر. ما در خاکی زندگی می کردیم که هیچ کدام از اتفاقات آن روزهای ایران را در خود نداشت. شرایط اوضاع آرام بود. چیزی نمی‌توانست ذره‌ای ما را به یاد ایران بیاندازد مگر اخبار و حوادث آن روزها. هرگاه میشنیدم هر لحظه تصویر تازهی فضای مجازی را پر میکرد. دیگر فضای مجازی نبود، واقعیت و اتفاقات حقیقی در خاک من بود که به درازا این فرسنگ‌ها از آن غریبه شده بودیم. چیزی که از همه چیز بیشتر مرا یاد آن روزها می اندازد نه اتفاقات ریز و درشت ایران که لحظه از آن چیزی می شنیدیم هیچ وقت اینها با آن پررنگی در ذهنم باقی نمانده که دیدن یک تصویر بود تا این حد به خاطرم سپرده شد و هر وقت به آن روزها می نگرم از خود بیخود میشم، اما آن روزها هر ثانیه میشنیدم که فقط مشکلات نیست و مردم رویاهای تازه‌ای هم در سر پروراندند به فکر تغییر افتاده و میخواهند چیزهای تازهای را برای زندگی خود و دیگران رقم بزنند شاید میخواستند زندگی آرامی داشته باشند و از شر این فقر و تبعیض و مشکلات رهایی یابند و یا شاید آمال و آرزوهای بزرگ دیگری داشتند لیک این را میشنیدم که اتفاقات ایران در حال پیشرفتن است هر روز خبر تازهای در سطح جهان درباره ایران نظر مرا به خود جلب میکرد و ما هم از این قافله مستسی نبودیم دقیق خاطرم نیست اما فکر کنم آن روزها ایده های تازه ای بر ایرانیان روح تازه ای داده بود و از آن حالت خونساه چندین ساله درآمده بودند. بودن تشکیل داده و هر روز نشست ها و گرده همایی داخل و خارج از کشور شکل می گرفت رنگ و بوی تازه ایران را فرا گرفته بود و هر روز در گیری های تازه ای در ایران به گوش ما و جهان می رسید هر روز هزبی چیزی را اعلام می کرد دست و گروهی نشریه و اعلامیه پخش میکردند. هر روز صدای تازه از ایران به گوش می رسید و هم همه و هیجان زیادی ایران را فرا گرفته بود. ما فقط شنونده آن بودیم. این ایام دقیقاً مصادف شده بود با امتحانات من که سخت درگیرش بودم. شاید به واسطه همین بود که خیلی کامل از جزئیات آن روزها خبری ندارم و همه را تیتوار به خاطر می آورم. اما چیزی که به درستی یادم هست و شاید باعث خیلی از تحولات درونم شد تا شاید بیشتر به این اتفاقات واکنش نشان دهم رویارویی با تصویری بود که فضای مجازی را پر کرده بود خوب خاطرم هست که پیش از یکی از امتحانات سختم خیلی درس خوانده بودم دیگر از این همه درس خواندن کلافه بودم میخواستم برای چند لحظهی هم که شده از آن حال و هوا بیرون بیایم تا تمرکز دوبارهای جمع آورم چندی بعد دوباره سراغ درسهایم بروم از این رو بود فکر کردم این دقایق را در فضای مجازی بگذرانم چند ساحی بود که درگیر فضای مجازی بودم هر از چندگاهی سری میانش می بردم. با دنیای گوناگونی روبرو می شدم که هیچ مرز و محدودیتی نداشت و حالا در این لحظه خیلی اتفاقی با یک تصویر آن هم از قلب ایران روبرو شدم همیشه صحنه هر دو کشور را مرور میکردم هم آلمان و هم ایران اما بالاخره زبان مادری فارسی بود و نگاه کردم به ایران و ایرانیان بیشتر برایم اهمیت داشت. می توانستم بیشتر با آن شرایط ارتباط برقرار کنم و آن روز و آن لحظه هم گوشی در دستم صفحات ایرانی را مرور می کردم که تصویری در برابرم خیلی اتفاقی نقش بست. پسر یک کوچکی بود. انگار کسی از او تصویر گرفته و مدام سوالهایی از او می میپرسد. با همان نگاه اول یاد دختره که آدامس فروش افتادم. ترکیب لباس‌های شبیه به او بود پسر بچه سوالها را پاسخ می‌داد که چه کار می چطور زندگی را سپری می کند؟ مدام در حال کار کردن است چطور مجبور است برای روزی رساندن به خانوادهاش تلاش کند هرچند تمام اینها را با زبانی کودکانه می اما امیغترین حرفهایی بود که در کل زندگی تا آن روز شنیده بودم هرچه بیشتر می بیشتر مرا به یاد و خاطر آن دختر کوچک می‌انداخت. حتی خاطرم هست چند باری جای صورتهایشان را تغییر دادم و صورت دختر را به جای او نشاندم اما همه اینها زمانی دنیا را در برابرم واژگون کرد که از پسر پرسیدند آرزویت چیست خیلی سوال ملموسی بود شاید به طول تمام مدت دیدن آن تصویر و دیدن آن دختر بچه هزاران بار همین را از خود پرسیدم که آرزویت چیست بارها و بارها به جایشان پاسخ دادم پاسخ‌های متعدد و گوناگون حتی بارها شاید به دور از آن تصویر تا آن لحظه در خیالم از دخترک همین سوال را پرسیده بودم و خودم به جایش پاسخهای متفاوتی داده بودم اما پسرک حال در دنیای مجاز واقعتر از هر واقعیتی در دنیا نشسته بود و به سوال میلیون ها نفر پاسخ میداد. شنید و کمی ساکت ماند بعد سوال را با پرسشی سنگین پاسخ داد آرزو چیست؟ جمله بارها در ذهنم تکرار شد، نمیدانستم دقیقا چه میگوید؟ اصلا معنایش را نمیفهمیدم. حال کسی در برابرم نشسته بود. همان دختر بچه، همان که ذره ای از زندگیم را در کنارش گذرانده و ساعتها ها فکر کرده بودم. آرزویش در جهان چیست؟ و حالا در برابرم با همان چشمان و همان نگاه ها معنی آرزو را میپرسید. آرزو را کسی به او نیاموخته بود حتی معنایش را هم نمیدانست حتی نشنیده بود تا به آن فکر کند تا با آن خوبه گیرد و شاید به آن زنده شود حال او را عذاب نمیدادند، او فقر نمیکشید او مورد تبعیض قرار نگرفته بود، او را کشته بودند همه وجودش را کشته بودند و او فارغ از تمام جهان حتی آرزو را هم نمیشناخت نبا این واژگان که با دنیا بیگانه بود چقدر آن لحظه برایم دردناک بود تا چه حد به دنیایی مدفون شده بودم که حتی معنایی از آن را هم درک نمی کردم تا کجا پیش رفته و به کجا میرسیدم. همه چیز در برابرم چهره عوض می کرد مدام به خودم نگاه می کردم کودکیم به حالم گاه آرزویی نکرده تعبیرش در برابرم بود او پدری نداشت هیچ کس نبود که نه آرزویی تعبیر که نه زندگی راحت که حتی آرزو را به قلبش بفهماند و زنده کند که حداقل در دور دست ها خیشتن به آرزوهایش برسد خیشتن برای آرزوهایش تلاش کند و آنها را به پیش برد حال من در اتاقی به درازای سالیان با آرزوهای ریز و درشتم زندگی کردم و در برابرم آرزوی ایستاده و من در حال آن رسیدن و محقق ساختنش تلاش میکردم و جمعی از کتب در برابرم به روی تخریخته نمیدانم باید چه چیز را از میانش برون آورم استخراج من از آن نوشته ها چیست به کجا خواهم رسید کودکی در دور ها و فرسنگها دورتر ایستاده و آرزو را به دلش کشتند هیچ برای آرزو ندارد و حتی آن را نشناخته که خیشتن برایش تلاش کند و آن را به دست آورد خاطرم نیستم وقت چند بار اینها را به شکلهای مختلف در ذهنم دوره کردم دیگر آن کتابها نبود که در برابرم باز بود می‌خواندم به جایش صورت دختره که آدامس فروش بود کتاب زندگی او که ورق به ورق به پیش می‌بردم و می‌خواندم آنقدر اینها را تکرار کردم که توان از جانم رفت و به خوابی عمیق فرو رفتم شاید اینقدر خسته بودم که میخواستم به خوابی ابدی فرو بروم به خوابی دنبال دار و جاویدان که هرگز برخواستنی در میان نداشته باشد. نه ساعتی تنظیم کردم نه دیگر برای امتحان فردا خواندم. شاید دیدن این چهره اور دنیای خیشتن و دیگران برایم آنقدر سخت بود که نیاز به پیله داشتم تا در آن تنیده شوم و پس از دانستن پروانه به بیرون پرواز کنم. تمام این صداها با صدای مهربان مادر تمام شد او که از تمام برنامههای درسی و امتحاناتم خبر داشت مرا از خوابی بیدار کرد که به درازای این سالیان آن را در انتظار نشسته بودم و حال باز هم دنیا در برابرم بود پدری ناجی و برآورندهٔ آرزوها مادری که تا این حد مرا دوست داشت و حال در انتظار من بود تا باز هم همان دختر همیشگی و مهربان باشم و آرزوهای به دلماندهاش را پاسخ دهم حتی خاطرم نیست حال که به آن روزها و آن روزها به پیشترها فکر میکردم آیا اینها آرزوهای خودم بود و یا آرزوهای به دلمانده پدر و مادر که در سینه من ریشه دوانده و پیش رفت و من محقق آن شده بود این بار بر برشانه ام نهاده شده بود هرچه که بود چشمان نگران مادر را میدیدم که چگونه آرزومند به من چشم دوخته و می‌خواهد. بار دیگر دخترش به میدان برود و دوباره سربلند از این آرزو بیرون بیاید و دوباره به او افتخار کنند و آرزوهای مرده در دوران جوانی را از این جوان تازه به دنیا آمده باز پس گیرند. اما شاید همان لحظه به آن پسر در تصویر چشم دوخته بودم که چگونه با نگاهی آرام اما نافذ به من چشم دوخته و حتی آرزویی ندارد تا تعبیرش کنم دیگر از من که هیچ حتی از خودش هم انتظاری نخواهد داشت که آرزوهایش را تعبیر کند وا مصیبت او حتی آرزو را نمی‌شناخت که آرزویی کند نگاه مادر هنوز هم دنبال کننده و تعقیب کننده بود که باید زودتر راه بیفتم و به پیش بروم خوب به خاطرم هست که آن روز نه برای خود که بهشان مادر مهربان و پدر دلسوز به پیش رفتم سر جلسه نشستم و هرچی از آن روز می دانستم به روی کاغذ آوردم و نوشتم و قبول شدم زندگی جریان داشت باید به پیش میرفت تا برای آن والدین لایق فرزند لایقی باشم هنوز هم آن برگه کاغذ امتحان به دلم مانده است که چرا آن را پر نکردم از دانسته های آن روزم از چیزی که نیاز بیشتری است دانستنش تا آن همه نوشته های هزاران ساله دور آرزوهایی که آن شب به خاطرم مانده بود را در آن کاغذ سیاهه میکردم کردم و سراخر به استاد و اساتید بزرگ جهان میفرستادم. حتی به آن استاد دورمانده از آرزوهایم هم میفرستادم تا او هم بخواند شاید خیلی از اینها همان در خیال منند شاید بخوانند و بیشتر بدانند و از های به آنان خورانده شده کمی دوری بجویند و بخواهند که خودشان بدانند و این اعمال هیچگاه به سرمنزل مقصود نرسید و آن امتحان هم یک امتحان ساده بود کتاب فریاد آثار نیما سواری بخش سوم بالاخره دانشگاه هم تمام شده بود و شروع فصل تعطیلات بود وقتی به پدر و مادرم اعلام کردم که نمیخواهم به کلاس خاصی بروم هر دو متعجب شدند دور از ذهنشان بود دختری که از همان ابتدای کودکی تمام تابستانها به کلاس مختلف میرفت، چه شده که امسال چنین تصمیمی گرفته چهره ایشان هنوز هم در برابرم هست، که هر دو چگونه با تعجب نگاه هم می گردند بعد از کمی تهیور هر دو جویای این شدند که چه درسر دارم و برای این تعطیلات رو چه برنامه ای ریختم به آنها گفتم میخواهم به درسهای عقب افتادهم برسم بیشتر با دوستانم وقت بگذرانم اما به واقع برنامه خاصی نداشتم بعد از دیدن آن صحنه حال حوصله کاری را نداشتم و مدام تصویر دختره که آدام سروش و پسرک را میدیدم و خیلی چیزها امروز برایم منای تازهی گرفته بود بیشتر به اطرافم نگاه میکردم. همه چیز را ریزبینانه تر مورد بررسی قرار میدادم. همه اینها در کنار حال نظاری که پیدا کرده بودم دست به دست هم داده بود که اطرافیان فکر کنند افسرده شدم وقتی با آراست شوخی نمیکردم و جواب پرخاش و دعواهایش را نمیدادم، این فکر بیشتر در ذهن اطرافیانم زنده می شد. امسال برخلاف تمام سالهای پیش شرایط فراهم نبود تا به ایران برویم. شرایط ایران ملتهب بود. یادم هست وقتی پدر گفت امسال به ایران برویم، مادر سری حرفش را برید و جواب منفی داد. آراز هم خیلی برایش مهم نبود و من هم به دوگانگی و دوراهی بزرگی رسیده بودم و دقیق نمیدانستم خواستم چیست. اما جواب سریح مادر قائل را ختم کرد و پدر هم چیزی قابل عرض نداشت که بگوید. فهمیدیم امسال از ایران خبری نیست و شاید بیشتر خیالم راحت شد تا به غار تنهایی هایم سرک بکشم. دوست داشتم ساعتها در اتاق بنشینم و مدام به همه چیز زندگی فکر کنم. خودم زندگیام رویاهایم همه را زیر و رو کنم. دیگر گربه ها هم نبودند تا اوقاتی را به آنها بگذرانم. در همان روزها بزرگ شدند و از پارکینگ خانه ما کوچ کردند و به دنبال زندگیشان رفتند. دلم برایشان تنگ شد. میتوانستم با آنها حرف بزنم اما آنها هم نبودند و این بیشتر مرا به غار تنهاییم سوق میداد. مادر را میدیدم که نگران است. برایش عجیب بود که دخترش حتی یک بار هم بیرون نمیرود. بیشتر وقتش را در همان چهار دیواری اتاق میگذراند. اما هیچ وقت زمانی که با او حرف میزدم ناراحتی از خودم نشان نمیدادم. اما چهره عوض کردن زندگی روزانه من بس بود تا آنها مرا افسرده بپندارند. آیا به واقع افسرده شده بودم؟ آیا تمام این در اتاق ماندنهایم به واسطه ناراحتی هایم بود؟ آری، ابتدایش همه به واسطه ناراحتی بود. دیگر حوصله کاری را نداشتم. همه چیز برایم بیهرزش و پوت شده بود. مثل سابق به چیزهایی که برایم مهم بود علاقه نشان نمیدادم و آن تنهایی بیشتر از هر چیز تسکینم میداد. خیلی اوقات فکر هم نمیکردم مدام به گوشه می زدم. اما همین هم برایم لذت بخشتر از کارهای تکراری گذشته بود. همه چیز به اینجا ختم نشد و این شروع دوباره برای من و زندگی هم بود. آن روزها مادر خیلی برایم وقت میگذاشت. به اتاقم میآمد کنارم مینشست از هر دری صحبت می تا در و دلهایم را با او میان بگذارم. اما سختتر از آن بودم که بخواهم به این سادگی بشکرم. نمیدانم شاید دوست نداشتم او را هم به چنین دنیایی برسانم. شاید میخواستم او در همان جهان زیبا و نادانسته ها باقی بماند. دلم برایش تنگ میشد. حتی وقتی در کنارم بود دوست نداشتم. او هم دردهای من را بکشد. ولی آغوشش را خیلی دوست داشتم. دوست داشتم به آغوشش پناه ببرم. او نازم کند. با نوازش و بوزه هایش جان تازه‌ای بگیرم و همان گونه هم شد. خیلی مهربان بود. کوچکترین اتفاق زندگی ما برایش از همه چیز دنیا مهمتر میشد و هر طریقتی را میجزست تا از آن حال و هوا بیرون بیاییم و حالا باز هم همان نگاه های مهربان که هر از چند چندگاهی نوازشم میکرد و بوس هم میزد آرام برایم از روزهای خوب و خوش دور و آینده میگفت. نمیدانم چرا وقتی از اینها می گفت بیشتر یاد دختر آدامس فروش میافتادم. بیشتر به صورتش چشم می و بیشتر قلبم درد میکرد. خودم را به آغوش مادر میانداختم. اش تا چشمانم بالا آمده بود، اما باز هم در خود همه را میخوردم و هر کاری می‌کردم تا مبادا این اشک‌های کوچک کار دستم دهد و مادر زیبا و مهربانم را ناراحت کند. پدری که اغلب خود را به اتاقم میرساند و سعی می می‌کرد با شوخی‌های بسیار، زمانی را در شادی سر کنیم. می می‌گفت از چیزهایی که دوست داشتم، بعضی روزها ناغافل به بیرونم میبرد به کنسرت خوانندگانی که دوست داشتم می‌رفتیم. باز هم آرزوهای به دل شکوف نکرده را برآورده می کرد. او تبیر تمام زیبایی های جهانم بود یاد آن روزهای پیشتر به خیر که چگونه وقتی تازه به آلمان رفته بودم بلیت کنسرت گروه مورد علاقه ام را خریداری کرده بود و ناقافل مرا به دیدن آنها برد و آن آرزوی طول و دراز به یک برآورده برآورده شد و ناجی زندگیم باز هم سعی در نجاتم داشت با او باز هم شاد می شدم لیکن فراموش نمیکردم و تمام سانیه ها در هر جا باز هم چشمان آن دو کودک در برابرم بود بعضی اوقات نگاه غضب آلودی داشتند و از شادی هایم ناراحت می شدند. هرچند میدانم آنها هیچگاهیگوونه نخواهند بود اینها هم از فکر خودم نشأت می گرفت این ساعت ها در اتاق و تنها ماندنم باعث شد تا بعد از دیدن آن اتفاق بیشتر درباره وضعیت ایران بخوانم و بدانم بیشتر وقتم را در تنهایی ها به جستجو درباره ایران و ایرانیان سپری میکردم. حال احوال آن روزهایشان که چگونه جان به کف خیابان میآیند و اعتراض می کنند. فیلم های زیادی از اعتراضاتشان در خیابان موجود بود که یک به یک را می دیدم. روزگارشان را به نظاره نشسته بودم که چرا تا این حد از شرایط ناراضی اند؟ از کجا سرچشمه میگیرد و این رود خروشان به کدامین اقیانوس سرازیر می شود. پس بیشتر درباره شرایطشان تحقیق میکردم. چقدر دور از ذهنم بود مردمی که تا این هد درد دارند. سالیان درازی است که در رنج و عذاب به سر میبرند و من که عمری را در کنارشان زیستم هیچگاه از دردهایشان مطلع نبودم. حتی یک بار هم با این دردها در ایران روبرو نشدم و اگر شدم همه را فراموش کردم. بارها به ذهنم خطور می کرد، خاطرات ایران را به خاطر می آوردم تا چیزی از آن حوادث و اتفاقات را برای خودم و در دلم بازنویسی کنم. اما هیچ در حافظه نبود، من از دردهای آنها بی اطلاع بودم و همه اوم نسبت به این دردهایی ای زله شده بودم. نه نزدیک آنان و نه در میانشان زندگی می کردم و نه کسی یا آشنایی در میانشان داشتم تا برایم از روزگارانشان بگوید، وقتی آنها برای آب و بی‌آبی سر و کله میزدند و در روستاهای دور این سرزمین در عذاب و مزیقه بودند من در کاخی که پدر و مادرم برایم ساخته بودند همه چیز در اختیار داشتم نداشتن آب برایم مثال شوخی می‌آمد که خیلی دور از ذهن و باورپذیر است وقتی آنها روزها و شبها را بی غذا می‌گذراندند من سر میز غذای نشسته بودم که با غذاهای مختلفی رنگین شده بود و شاید اگر یک بار چنین صفری در برابرم نمیانداختند، از زمین و زمان شاکی میشدم. ولی آنها نداشتند که پنه کنند و در گرسنگی خاموش میماندند. به چه اعتراض میکردند؟ وقتی چیزی در برابرشان نبود و چقدر دنیاهایمان از هم دور افتاده بود چند درصد در ایران مثل من و هم زندگی میکردند. آن روزهای پیشتر که فکر می کردم همه چیزی که برای خودم می دیدم برای آنها هم متصور بودم و در آن اعتراضات می فهمیدم نه ما خیلی کم هستیم و دنیای ایرانیان چیزی به دور از دنیای مانده در مجاز ماست حال دنیای مجازی در برابرم بود که از هر واقعیتی که به طول عمر دیده بودم حقیقی تر می آمد. یک به یک این دردها و ها را به چشم می‌دیدم این این کمبود و نابرابری ها و تبیز ها، این فقر انسان ها. فهمیدم از چه رو تا این حد به خشم آمده و در خیابان احخاق حقوق خود می کنند. خوب خاطرم هست که آن روزها مردم ایران به ریشه رسیده بودند و فریادشان چیزی فراتر از این دردها بود. چیزی که آنها به دل داشتند و برایش تلاش می کردند فقط فقر و نابرابری نبود. آنها برای آرمانی بزرگتر می جنگیدند اما باز هم در آن روزها برایم این موضوعات اهمیت نداشت و بیشتر از هر چیز دیدن آن ظلمها ها مهم می آمد. و سعی در جستن و دانستن این ها داشتم. حال در اتاق فرسنگ ها دور از آنها از همیشه حتی زمانی که کنارشان بودم به آنها احساس نزدیکی بیشتری میکردم. دردهایشان تبدیل به دردهایم شده بود. دوست داشتم بیشتر آنها را درک کنم. انسانهایی که به طول همه عمر با در کنار هم بودنشان نتوانستم آنها را درک کنم. زیرا در حبابی از آسایش های زندگی شخصی زندگی می کردم در این حباب همه را در این راه و طریقت می آفتم. اما بالاخر این حباب ترکید. چهره‌ی اور جامعه‌ای که از آن زاده شده بودم را دیدم هر روز بیشتر خودم را در این دیدن و دانستن غرق می‌کردم و این دریاچه مرا به سوی سرمنشه و شروع آبریزها میبرد. حکومتی دینی و فاسد که در جاجای مملکتم ریشه دوانده بود و همه را به زشتی سوق می‌داد همان چیزی که آن روزها ملتم دریافته بود من هم دریافته بودم از آن روزهای پیشتر خیلی فاصله گرفته بودم من هم حق داشتم که چیزی را نبینم در زندگی خودم غرق بودم و هیچگاه آنها فریادی به بیرون نرسانده بودند تا من و همسالانم بشنویم اما آنها دردها را فریاد می زدند من هم می شنیدم چون در برابرم بود مسیر این دردها را دنبال می کردم تا به سرمنشأ و علت وجودیش برسم و بدانم که این علت چیست که چنین معلول در برگیرنده ای را علم کرده و روز به روز انسانهای بیشتری را در خود غرق می کند من هم به همان راهی رسیدم که مردم ایران رسیده بودند من هم در کنار آنها ترقی می کردم پیش می رفتم و پی می بردم این هنجارها است که به طول این سالیان ریشه دوانده و هرزشی را به قانون بدل کرده است هر ظلمی را به کرسی نشانده چه نظام بد است. باید به درون مشکلات پیش رفت، ریشه را واکاوی کرد، همان چیزی که در طول سالیان تحصیل فرا گرفتم که نمیتوان به سادگی از کنار مشکلی گذشت و با نوش آن را از میان برداشت. باید که دقیق شد، وقت صرف کرد، همه چیز را شناخت، به ریشه ها رسید و آن روز که ریشه را در اختیار داشت، راه درمان آسان است و میتوان آن زشتی را از میان برداشت تا زشتی یکی پس از دیگری از میان بروند. به جایش زیبایی کاشت و پروراند و چندی بعد سمره اش را درو کرد و دید. همانطور که مردم ایران در آن روزها به حکومت دینی فاسد و خاصگاهش رسیده بودند من هم می توانستم مثال آنان همین راه را بپیمایم و این زشتی ها را درک کنم. البته این مراحل گام به گام است. باید در ابتدا آن را شناخت و من هم آن شده بودم که بشناسم. اول بدانم و این دانستن جرقه اول این راه بود. حال هر روز اگر برای تحقیق پیش می رفتم هدف هدفمند بود این راه در پیش رویم بود و باید بیشتر از جمهوری اسلامی میدانستم. از نظرها آرا و خاصگاهش دیگر فقط به دنبال اتفاقات ایران نبودم و راه هم را پیدا کرده بودم باید ریشه یابی می‌شد و میفهمیدم که چگونه این ریشه خراب پا گرفته و این درخت کج و را به وجود آورده است که ثمره این دریای ظلمت است شاید هرگاه به این سیر دوار نگاه می کردم در نوک هرمش همان حکومت را می دیدم و به قلبش فاجعهی بزرگتر را. همان پسرک و دختر آدام سفروش که چگونه چنین درخت کجی چنین میوه زشتی به وجود آورده و تا به کجا آدمیان را به پیش خواهد برد و برده است؟ حال بیشتر از گذشته‌شان می‌دانستم، بیشتر در تعقیب آنها به گذشته سرک می‌کشیدم. هرچند نمی‌توانم ادعا کنم که از همان ابتدا خودم این مسیرها را در پیش گرفته بودم، و اینقدر دقیق شده که بتوانم ریشه اصلی را دریابم. با تمام این موضوعات سعی می کردم بیشتر به گذشته سفر کنم و شاید هم همین اتفاقات مرا به این گذشته سوق می‌داد. ملتی که بیدار شده بود و یک گام بیشتر از من در حال حرکت بود و من تازه به این تفکر اضافه شده بودم. دوست داشتم خودم را به آنها برسانم. در همین اوقات غرق در همین نفکار بودم که بارها مادرم پیشم می آمد. این همه تفاوت و تغییر روحیات مرا لمس میکرد و گاهگاه از من سوال می کرد که چه شده است. اوایل همهشان مطمئن بودن که افسرده شدم اما وقتی شور و اشتیاقم را میدید، این تغییرات برایش گنگ بود که حققا چه اتفاقی برایم افتاده و تا این حد عوض ام. حالا دیگر هیچ کدام از ارزش‌های گذشته زندگیم برایم مهم نبود آنقدر به سر و پوشش نمی دادم. به و پوششم اهمیت نمیدادم. بیشتر وقتم به مطالعه و خواندن می‌گذشت اما نه از نوع درسی تمام اخبار برایم مهم بود با دقت گوش میدادم و مادرم میدید که چگونه دقیق به حرف های پدر گوش میدهم همه اینها او را وادار میکرد که گاه و بیگاه از من سوال کند چه به روزم آمده است و در چه دنیایی سیر میکنم به دنبال چه میگردم و همیشه منی که به او جواب های سربالا میدادم و هیچگاه خانه از پیشم نمیرفت پدر هم درگیر کار بود و این تحولات من را معمولی میپنداشت و نشانه هایی از بزرگتر شدنم میدید. برادرم که اکثر زمانش را با دوستان و کلاسهای مختلف می لقب صوفی به من داده بود. خیلی هم از این لقب ناراضی نبودم و حال طریقتی تازه در برابرم بود. یادم هست که در آن روزها و دانستن حکومت و عقبهش مرا کم کم به واجهی تازه رساند. به سال تازهی در برابرم دریچه جدید باز شد که تا آن روز حتی یک بار هم نشنیده بودم. نمیدانم چند دسته از سز مردم ایران آن را نشنیدند اما من که از همان مردم بودم هیچگاه آن را نشنیدم دقیقاً خاطرم نیست مضمونش چه بود اما یک بار خیلی پیشترها این واژه را میان اعتراضات مردم و شعارهایشان شنیده بودم اما آنقدر برایم بیمفهوم بود که دنبالش را نگیرم و برای دانستنش کاری نکنم اما وقتی سخنرانی یکی از دانشجویان هموطنم را گوش می دادم که در یکی از احساب سیاسی آن روزها در ایران نطخ می کرد تلنگوری در جانم احساس کردم احساب سیاسی نوپایی که برای همین تحولات در ایران شک گرفته بود وقتی آن واجه ها را میان خطابهش آنقدر بلند و رسا شنیدم خیلی به فکر فرو رفتم تا بیشتر دربارهش بدانم خوب خاطرم هست جان دانشجو چطور بی‌پروا در برابر میز خطابه ها گفت رژیمی که در سال 67 آن کوشارهای وحشیانه را کرده است به هیچ عنوان صلاحیت حکومت نخواهد داشت این واژگان در گوشم چند باری زنگ زد سال 67 کوشارهای وحشیانه تا آن روز چیزی از آن نشنیده بودم و حالا این جرقه‌ای بود که بیشتر بدانم سال 67 مگر چه سالی چه اتفاقی در ایران افتاده که او این را دلیلی برای برکناری حکومت وقت میداند اینها همه برایم سوال بود و ساده ترین راه در برابرم باز هم باید هایم را با دنیای مجازی در میان میگذاشتم تا او به من پاسخی دهد و این گونه در این آتش جهالت نسوزم چند باری به خودم لعنت فرستادم که چگونه تا این سال از زندگی درباره این موضوعات نشنیده و ندانستم اما آن روز دیگر باید میدانستم. با نوشته های بسیاری روبرو شدم سال 67 یک تابستان خونین در ایران هر کجا حرفهایی درباره این اتفاق نوشته شده بود حال یکی از زبان دفاع و یکی به قصد حمله و یا با هر هدف دیگر اما صحبت همهشان به یک راه ختم میشد. کشتار دست جمعی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 در زندانهای ایران توسط جمهوری اسلامی هز این صحبت آن روز در ذهنم خیلی سخت و سنگین بود انقدر سخت بود که چند روزی را برای دانستن و فهمیدن همین جمله اختصاص دادم زندانی سیاسی به چه معناست؟ چه کسی را زندانی سیاسی خطاب می کردند؟ کشتار دست جمعی تعداد از هزار شروع می شد به 5000 هزار گاهی بیشتر هم می رسید کشتار این تعداد آدم به دست یک حکومت در یک تابستان به چه معناست؟ فهمیدنش برایم مقدور نبود هرچه بیشتر فکر می بیشتر به پاسخش نمی رسیدم. مگر امکان داشت در خاکی که ما زندگی می کردیم در خاکی که ما درس میخواندیم در خاکی که ما بازی می کردیم در همان خاک تعداد زیادی را به واسطه باورهای سیاسی و اعتقادشان سلاحی کنند؟ چرا من حتی یک بار همین را نشنیده بودم؟ پدر که مدام درباره مسائل و مشکلات حرف میزد حتی درباره حجاب هم گفته بود چگونه حتی یک بار هم از این موضوع به من نگفته است؟ یعنی او هم نمیدانست یا مسلهلح ندانسته تا من بدانم؟ اگر او را هم کناری بگذاریم چگونه خودم نفهمیدم؟ چگونه سالیان درازی را در آن خاک زندگی کردم و حتی ندانستم؟ زندانی سیاسی چیست و اگر چیست آیا ما هم در کشورمان داریم؟ اگر داریم آیا اینگونه کشته شده اند؟ چگونه منی که از کوچکترین اتفاقات شخصی زندگی هنرمندان و بازیگران خبر دارم میدانم فلان بازیگر کی و با چه کسی زواج کرده حتی یک بار همین موضوع به گوشم نخورده که در این خاک هزاران نفر را به واسطه باورهایشان به دار آویختند و کشتند و تمام وجودم را شرم فرا گرفته بود دیوانه شده بودم اصلا برایم قابل فهم نبود چگونه تا این حد نادام بودم مردمی که چگونه تا آن سالها حتی یک بار هم از این حرفها در مله عام نزدند، آگاه نکردند من و امثال من را. آنها که مورد ظلم قرار گرفته بودند یا دغدغهشان بود، مردم این کشور را می‌گفتم. آنها که دردی نبرده اما هموطنانشان کشته شده بودند، درد کشیده بودند. چگونه به طول این همه سال اعلام براءتم از این حادثه شوم نکردند؟ فکرهای بسیار ذهنم را می‌فشورد که پدرم نجاتم داد. ناجی همیشگی هم نمی توانستم این موضوع را با او میان بگذارم نمی توانستم از او همین سوالات را بپرسم به توانش را نداشتم. آیا خانواده ها دوستان و آشنایان آن قربانیان هم روحی نداشتند تا از مردم سوال کنند و باز هم هزاران آیا که در سرم بود. باز خودم را به دستان پرمهر پدر سپردم تا برای دقایقی ساعتی یا روزی از این مردابی که در آن گیر کرده بودم رهایی یابم و خلاص شوم. با پدر بیرون رفتیم، به شهر نگاه می کردم. به مردم این شهر، آیا آنها دردهایی مثل ما ندارند؟ آیا آنها هم مثل مردم من نبودند؟ آیا دختر آدام سفروش در اینجا زنده نیست؟ با نگاه کوچکی هم می شد فهمید، آنها هم هزار درد پیش رویشان است، اما آیا آنها هم مثال ما به طول این سالیان در برابر تمام این نامردمیها سکوت کردند؟ آیا اتفاقاتی که در طول تاریخ بر سر ما آمده اگر آنها هم میکشیدند باز هم مسکوت میماندند و دم بیرون نمیآوردند؟ پدرم صدایم زد از افکارم بیرون آمدم به یاد حرفی از خودش افتادم که می‌گفت ایرانیان ملتی صبورند باز هم در میان افکار قوطه میخوردم دوباره صدایم کرد و به خودم آورد خاص با هم به دیدن تئاتر برویم، قبول کردم و چندی بعد در برابر بازیگرانی بودم که زندگی را بازی میکردند. نمیدانم موضوع تاتر چه بود؟ اما مدام آدمهایی را میدیدم که به واسطه باورشان به گلوله بسته میشدند. ادام میشدند کمی دورترها کودکی نشسته بود. هیچ آرزوی نداشت. آرزویش را سالها پیش در دل زندانها به دارا آویخته بودند. دیده بود: آرزو من چه سرنوشتی دارد؟ شاید می دانست آرزو چیست شاید آرزوی بزرگی داشت شاید آرزویش به وسعت جهان بزرگ بود لیک می دانست آرزو من چه فرجامی دارد و خود را وادار می کرد که دیگر آرزو نکند دیگر چیزی نگوید و حرفی برای گفتن نداشته باشد تا سرنوشتشان نباشد و یا شاید آرزویش را میان زندانها کشتند شاید آمالش در همان زندانها بود و بعد از کشتن به درازای سال دید کسی دم نمیزند حرفی نگفته اعتراضی سر بر نیاورده است فهمید آنها آرزویش را فراموش کردند و او هم به آرزویش خاتمه داد و آن را به فراموشی سپرد که جماعتی میلیونی آن را فراموش کردند پس راه را در این دید تا مثالان بیشماران آرزو را در سینه بشکند بکشد و دفت کند تا هیچگاه سر بیرون نیاورد که فرجامش قتل و کشتار باشد و یا شاید او آرزو داشت آرزویش را چندین بار در گوش ما نجوا کرد و امثال من بودند که هر چیز ریز و درشتی در زندگی برایشان مهمتر از آرزوهای آنان بود فهمیدند خیلی چیزهای کوچک از این آرزوها با عرضشتر است و آنها همین آرزوها را با تمام وسعتش به قبرستان دل فرستادند تا بازیچه و مسحکه ما و جمع بیشمار ما نشود تاعتر تمام شده بود ولی من باز هم ه به درازای تمام سالیانی که ندیده بودم داشتم می دیدم و هر لحظه در چهرهی تازه آرزوی برباد رفته جماعت بیشماری را به نظاره نشسته بودم و پدری که تا حد مرگ نگران دخترش بود دختری که هر بار در تئاتر از رخ و رخصار زن و مردهای بازیگر صحبت می کرد از بازیشان، از غرورشان، از هنرشان و بارها جویای احوال حال و زندگی شخصی آنها بود اما حالا مثال سنگ میدید و پدر بیشتر نگرانش می شد لیک خبری از دل و قوغای درونش نداشت می مرا به خنده وادارد حتی به حرفهایش با آن نمی شنیدم لبخند هم میزدم. به سوران هم می آمدم، قضا هم میخوردم و حالاتم را مثل سابق نشان میدادم. باز هم از همان حرف ها زدم تا دلش را به دست بیاورم در برابرم براورده کننده تمام آرزوهایم نشسته بود حق نداشتم او را نگران کنم و یا برنجانم اما هر وقت بازی کردم باز هم بازی های کودکانه آن دو کودک و هزاری دیگر در برابرم بود کتاب فریاد اثر نیما بخش چهارم این بار دیگر راهی روشنتر از قبل در برابرم بود میخواستم از گذشته تاریخ معاصر ایران بدانم اما درباره همان سال و همان تابستان خونین میخواستم بدانم چه بلایی سر مردم این سرزمین آمده سال 67 چه اتفاقی در این خاک افتاده بود برای گام نخوص شروع به خواندن کتاب ها کردم کتاب هایی که پیرامون این اتفاق نگاشته شده بود از هر جا کتابی پیدا می کردم که ارتباطی با موضوع سال 67 داشت می خاندم. حال اگر تنها گزارشی پیرامون آن اتفاقات بود یا اشارت کوچکی به ماجرا داشت و یا حتی خاطر نویسی زندانیان و عوامل کشتار بود خلاصه هر نوشته که ارتباطی با اتفاقات سال 67 داشت را می خاندم. تا بیشتر از آن روزها و حال و هوایش مطلع شوم بدانم چه کشیدند دوست داشتم بدانم آنها چه انسانهایی بودند چه روزهایی را گذراندند و چگونه به راه اهداف و آرزوهایشان جانشان را قربانی کردند اما این کتابها آتش دانستن من را از آن اتفاقات سیراب نمیکرد. دوست داشتم باز هم بیشتر بدانم و از نزدیک آن روزها را لمس کنم در همان روزها در خارج از کشور هم نشست های زیادی برگزار شد مثل داخل ایران این کشور کهن از خواب چند هزاران سالهاش برخواسته بود و جای جای داخل و خارج از کشور مراسمی بود که در آن به نقد و بحث آدمیان را فرا میخواندند اخبار این ها را هر روز از فضای مجازی دنبال میکردم گهگاه نوطخهای غرایی که در میان این جلسات رد و بدل میشد شور بسیاری برای ایرانیان به وجود میآورد و بر من هم تأثیر میگذاشت این اتفاقات در یکی از همین جلسه ها در چند مایلی ما برگزار می شود. من هم می در آن حضور پیدا کنم و نکته مهم مجالب آن این بود که موضوع این نشست اتفاقات سال 67 و کشتارهای جمهوری اسلامی در آن تابستان خونیم بود چیزی که من تشنه به دانستنش بودم و حالا فرصتی برایم پیش آمده که در نشستی با این موضوع شرکت کنم و حرفها را از نزدیک بشنوم. نکته مهمتر این بود که برخی از بازماندگان این جنایت شوم هم در این مراسم شرکت می کردند. یعنی فرصتی برایم فراهم شده بود تا آن انسان را از نزدیک ببینم و حرفها را از زبان خودشان بشنوم. کسانی که در بین این اتفاقات بودند و خودشان هم جزی از همان بخش تاریخ کشورم به حساب می آمدند. تاریخی حماسین و ننگین، هماسه ای از های زنان و مردانی دلیر که از همه چیزشان در راه اهداف و باورها گذشتند و ننگی به پیشانی این تاریخ که چگونه حکومتی وحشی تا این حد خساوت کرد و چنین ناسخویی را به راه انداخت و آرزو را به مرگ پاسخ داد. حال دریچه‌ای در برابرم بود تا این حقایق را از زبان کسانی بشنوم که خودشان در جا جای آن بخش بزرگ از تاریخ ما حضور داشتند. به سرعت رفتنم را با خانواده در میان گذاشتم. نمی توانستم بگویم به چه همایشی خواهم رفت. گفتم برای گردش و وقت گذراندن با دوستان چند روزی به شهری دورتر از شهر محل سکونت خواهم رفت و به زودی باز خواهم گشت. مادر با تمام وجود مخالف این رفتن بود، اما پدر معتقد بود رفتن و وقت گذاشتن با دوستان میتواند روحیه شکسته من را تا حدی حد التیام بخشد. چند سباهی با هم صحبت کردند. طول کشید تا هر دو موافقت کنند خیلی اصرار داشتند که آراز هم همراه هم بیاید اما شانس با من یار بود و آراز خودش درگیری های زیادی داشت و قبل حرف زدن من خودش غذیه را منتفی کرد من حالا باید هتلی نزدیک به سالون همایه شست و پا می کردم و بعد به سمت شهر معود میرفتم تا چیزهای تازهی بفهمم با کسانی روبرو شوم که خودشان بخشی از تاریخ سرزمین مادریم را رقم زده بودند. بعد از مهیا کردن توشهای برای سفر به راه افتادم. وقتی از درب خانه بیرون میرفتم، دلم برای گربه ها به شدت تنگ شده بود. دوست داشتم آنجا بودند و مرا بدرقه می کردند. شاید اگر امروز می دیدمشان، تلاش می کردم تا نوازششان کنم، در آغوش بگیرمشان و سفت بفشارم جان و تن زیبایشان را. اما نبودند و جای خالیشان در گوشه ای از ذهنم به جای ماند. پیش رفتم تا سرنوشت تازهای برای خود بسازم. وقتی به هتل رسیدم و وارد و اتاقم شدم از کول بارم که و دفترها و ها را بیرون آوردم و سری در گوشه ای از اتاق چیدم خیلی با گذشته فرق کرده بودم. شاید اگر چندی پیش سفر میکردم این چمدان چیزهای دیگری در خودش داشت که امروز حتی لحظه ای به آن هم فکر نمیکردم. در همین حال بود که پرنده ای به شیشه ضربه زد. با دیدنش به یاد بچه گربه ها افتادم. سری بران شدم تا برایش غذایی دست پا کنم. پس از قدری جستجو در بهار خواب مقداری خوراکی ریختم. بعد از گذشت زبانی تعداد زیادی از پرندگان جمع شدند و شروع به خوردن کردند. آنها همراهم هم بودند تا احساس تنهایی نکنم. شاید بچه گربه ها سفارشم را کرده بودند که در این شهر همدم و مونسی داشته باشم. حال با خیال راحت منتظر شروع همایش بودم. وقتی راه میرفتم تا خود را به سالن برسانم در پایم میلرزید. استرس زیادی داشتم. نمیدانم چه چیزی تا این حد در وجودم ترس به وجود آورده بود. آیا فکر میکردم به سمت زندانهای آن سال در حال پیش رفتنم؟ فکر میکردم آن جماعت چه انسانهایی هستند؟ چه تصویری در ذهن از آنها ساخته بودم؟ استرس زیادی داشتم و شاید هر کس از چند متری هم متوجه این نگرانی میشد. به هر زحمتی که بود خود را به سالن همایش رساندم. در ذهنم در این چند روز هر بار برای آنها متصور می شدم. بعضی وقتها آنان را زنان و مردانی دردمند می دیدم که رد تازیانه و تیغ و شمشیر بر همه جا حتی سر و صورت دارند گاهیانها را انسانهایی می دیدم فرای آدمیانی که تا به حال دیده بودم فکر می کردم سیمای متفاوت از ما دارند خیلی برایم هضمشان مشکل بود هر روز در ذهنم برایشان چهره و تصویر جدیدی متصور می شدم و حال به درون سالن رسیده بودم سالونی بود سفید و بزرگ با سخفی بسیار بلند سندلی های چوبی زیادی سحنش را پوشانده بود که هر کس می توانست روی یکی از آنها بنشیند و این سندلی ها با نظم در کنار هم به ترتیب و رو به صحنی که از قبل تدارک دیده شده بود قرار گرفته بود دیوارهای سفید و سندلی های چوبی اولین چیزی بود که دیده را درگیر خیش می کرد. بعد از ورود و دیدن بیشتر سح نگاه ها خیره به آن منظره میشد جایی برای سخنرانی در نظر گرفته بودند و صندلی در کنارش گذاشته بودند. نکته ای که خیلی چش را محسور می کرد تعداد بیشماری عکسثررقابهای چوبی بود. تعدادشان زیاد بود هر کدام اندازه خاصی داشتند. عکسها مرتبط با موضوع همان سالها بود، بعضی از عکسها خیلی به فکر وادارم میکرد و بعضی لرته به جانم میانداخت. حتی در بین این عکس ها جلد بعضی از کتبی که خوانده بودم هم به چشم میخورد و حواسم یک سره در بین ها قاب ها و عکس ها بود که یکباره به خاطرم آمد کجا آمدم؟ به انسان ها نگاه کردم. خیلی معمولی و شبیه به خودم به مادرم به پدرم و شبیه به آراز بودند نه از چهره خونین و زخمدار خبری بود نه از چهره های ماور هرچه بود همه انسان بودند و خاکی شبیه به خودم. اما در دل گفتم اینها انسانهایی معمولی مثل خودم هستند و با بازماندگان حتما در آن صندلیهای بالای سن خواهند نشست در همین حال و هوا زنی تقریبا مسن صدایم زد رو برگرداندم یک مقداری هم ترسیده بودم گفت دخترم چیزی شده رنگ رویت پریده چیزی لازم داری سلام کردم و تشکر و چندی بعد با تارف خودش در کنارش نشستم بعد از من پرسید فرزند یکی از آزادگانی آزادگان در گوشم زنگ زد آزادگان یعنی یکی از همان قربانیان یعنی من فرزند یکی از آنها هستم در فکر فرو رفته بودم که او گفت روزهای سختی بود واقعا سخت حرفش را بریدم و یک باره گفتم شما چه کسی هستید؟ خیلی جا خورد و کمی بعد گفت من یکی از بازماندگان همان سال ها هستم به یک بار بند دلم پاره شد به او خیره شدم تمام اجزای صورتش را کردم. چند بار از بالا به پایین و از پایین به بالا به اون نگاه کردم تا چیزی از خیالاتم را در وجودش پیدا کنم اما هیچ چیز خاصی نبود شبیه به مادرم بود همانقدر توپل و مهربان در همین افکار بودم که گفت چه شده دخترم؟ میخوایی کمی بیرون برویم تا هوایی بخوری؟ دوست داشتم کنارش باشم و او حرف بزند من هم گوشته بی معطلی قبول کردم و بیرون رفتیم فکر میکنم چهرم خیلی تغییر کرده بود که او اینگونه به وحشت افتاد. و سری با آبمیوه‌ای پیش آمد تا شاید ذرهای بهتر شوم. بعد از خوردن جویای حالم شد. با اشارت سر به او فهماندم که خوبم. بعد بلا فاصله به او گفتم: «یعنی شما در سال 67 در زندان بودید؟ آن روزها را دیده‌اید؟» آهی کشید و گفت: «آری، آن جهنم را به چشم دیدم. روزهای وحشتناک و سختی بود.» بعد دوباره آهی کشید باز هم محفه صورتش بودم گفت تو برای چه به اینجا آمده ای؟ گفتم دوست داشتم بیشتر بدانم آن انسانها را از نزدیک ببینم نگاهی شرد و گفت این هم جای مباحات است که دختران جوانی مثل شما تا این حد به آن روزگاران و سرنوشت ما علاقه باشند بعد با اشاره و در عین حال بلند شدنش ادامه داد بهتر از داخل برویم رفتیم و داخل نشستیم در اون جملاتش را حلاجی می کردم آیا این حرفها را به عنوان کنایه و یا به قصد تعریف گفته است چند باری حالات صورتش را در ذهنم مجسم کردم که در زمان گفتن چگونه نگاهم می کرد در این میان به یاد صورت مهربانش افتادم شاید از ما و هم نسلان ما خیلی ناراحت بود که چگونه حتی یک بار هم از آنها یادی نمی کردیم حال به او حق می دادم حتی اگر با کنایه گفته باشد. نگاهش مهربان بود و این حرف را از ته قلب گفته مثل مادری بود که هر گناه فرزند را میبخشد و شاید او هم مرا بخشیده بود. با هم به او نگاه می کردم. با اینکه همایش شروع شده بود چیزی از حرفهایشان نمیفهمیدم. بیشتر به جمعیت در همایش چشم دوخته بودم. یکی شبیه به پدر در میانشان جستم. به دستهایش نگاه کردم و در دل آنها را در زندان تصور کردم. نمیدانستم چه تعداد از هزار مردم عادی هستند و چه تعداد جز بازماندگان آن جنایت شون چند بار خواستم حواسم را به سخنرانی جمع کنم اما اصلا تمرکز نداشتم تنها چند بار صحبتهای بریده بریدهی شنیدم از دادگاه، از آن روزها، با هایم یکی بود از دردها و رنجها اما بیشتر حواسم به چشمها، نگاهها، اندام، دستها، پاها و صورتشان بود به صورت تمام آن جمع نگاه می کردم و در ذهنم برای هر کدامشان داستانی ترسیم کرده و به آن بال و پر می اما شوری که در سالون شک گرفت من را هم به خود آورد. یکی برسن ایستاد و موضوع مهمی را اعلام کرد نوشته ای را توسط بازماندگان آن روزها جمعآوری کردیم که با رشادتهای آنان حفظ و از داخل زندانهای آن روزگاران ایران گرد آمده است سرگذشت زنی مبارز که به دست خودش در همان زندان نوشته شده است و بیانگر بسیاری از حقایق و پاسخ خیلی از پرسشگران را در خود خواهد داشت. این سرنوشت و زندگی نامه یکی از بهترین دختران ایران زمین یکی از شجاعترین زنان از داخل زندان خونین جمهوری اسلامی است که در اختیار شما قرار می دهیم تا اولین کسانی باشید که با سرگذشت این دختر شجا آشنا شدید. سلماز ایرانی حالا یک دفترچه در اختیارم بود. دفترچه را باز کردم. با همان دست خست خودش چاپ شده بود. بعضی از جاها خط خورده بود و یا تون, تون نوشته شده بود. بین صفحات صفحاتی وجود داشت که کامل یا بیشتر آن خط خورده بودند. به جای جایش نگاه می کردم و آن نگاره را زیر و رو می کردم. هزار بار از خود می پرسیدم داخلش چه چی چیز نوشته شده. مشتاق بودم تا آن را سریعتر بخوانم. از یک سو دست و پایم میلرزید و از خاندن بازم میداشت و سوی دیگر همه جانم هم اشتیاق و دانستن بود از خود میپرسیدم این دست خط کسی است که در آن سالها در همان ها بوده یعنی چه نوشته است یعنی او مثل من بوده اسمش که با من یکی بود یعنی روحیات فکرها و باورش هم مثل من بود در آن روزها و در آن زندان چه به روزش آمده و هزاران فکر و سوال ریز و درشت دیگر از آن خانوم مهربان خداحافظی کردم و از آنجا دور شدم نمیدانستم حالا که همایش تمام شده به خانه برگردم یا به همان هتل و همان اتاق چند روزی را در همانجا سپری کنم در همین افکار بودم که به در اتاق رسیدم با وارد شدن اولین چیزی که به خاطرم رسید همان پرنده ها بود به سرعت برایشان در بهار خواب غذایی ریختم و پشت پنجره منتظرشان شدم. از آنها خبری نبود، در همینه این تصمیم گرفتم همین همینجا بمانم و این دست نگاشته را با دقت بخوانم و پرندگان رسیدند. من با خیالی آسوده در گوشه از اتاق نشستم و دفترچه را در برابرم باز کردم. خاطرم هست، نوشتهها ها ترتیب درستی نداشت، هر جا درباره چیزی صحبت می کرد، این به هم ریختگی در جا جایش مشهود بود، در هر جا از نکته ای صحبت می شد. شاید چند جمله از زندگی گذشته و بعد نوشته هایی درباره آینده و حال آن روزهای دختر همنامم جای جایش پر بود از خط و کلمات نامفهومی که درست نوشته نشده و یا ناخانه بود اما به خوبی متن اصلی و موضوع را بیان می کرد حالا نوشته را به خاطر می آورم. سعی می کنم همش را هماهنگ و مرتب به ذهن بسپارم و درباره فکر کنم در جای جای آن نگاره میشد دانست که سلماز کیست دنیا را چگونه می بیند چه اتفاقاتی برای او و هم افتاده است شاید آن خط خطی کردنها هم هزاری موضوع در دلش داشت کاش میدانستم در آن لحظه به چه چیزی فکر می کند هرچند میشد از التهاب گفته هایش در چندی قبل از آن آثار فهمید که در چه دنیایی پر از ترس و کینهای نفس میکشید؟ چگونه میتوان باور کرد که انسانهایی تا این حد وحشی و سنگ دل در جهان زنده اند. برای منی که از دنیا همان دوروبری هایم را دیده بودم خیلی دور از ذهن بود واقعا از درکش عاجز بودم شروعش برایم ترسیمی از دنیایی بود که در این روزها با آن دست و پنجه نرم میکردم شاید تعبیر افکار روزانه ام بود به نام آزادی و برابری واژگانی دور مانده از ذهنم واژگانی که دنیا نخواست تا معنایش را به درستی بفهمم تا آن روز به آزادی فکر هم نکرده بودم شاید واجهش را بارها شنیده و در همان واژه محسور مانده به نظار سالیان بر او و جامعش به نشسته بودیم اما شاید شنیدنش از زبان کسی که در بنده است تعبیری از این واژه به اسارت کشیده شده باشد و برابری که حال باز هم نگاه های مغموم پسرک را برایم به خاطر می آورد. برابری که هیچگاه که نصیب نشد واژگان غریبی در برابرم بود و به طول این سالها فقط آنها را در میان کتب درسی و از زبان کسانی شنیده بودم که حتی یک بار هم به معنی آنها رجوع نکرده و فقط عدایش میکردند و حال چند روزی نه که معنایش به دنیایم پای گذاشته است و از زبان کسی میشنیدم که لایق به کار بستنش بود این دو واژه با نامش صرف شد و جان و معنا گرفت، نامش یا نامم چه فاصله دوری هر دو یک اسم داشتیم، او چه مغرور از نامش یاد میکرد که چه جاودان معنایش برازنده وجودش بود. وقتی میگفت پرپر پر نشدنی با تمام وجودم جانش را درک میکردم و میدانستم پرپر پر نخواهد شد و با تمام وجودم این وجود جاویدان را لمس میکردم. گلی که میان مرداب رویده و از دست نابکاران دور مانده چگونه خواهد توانست به او جزندی برسانند و تا عبد او پایدار به جایش خواهد ماند پرپر شدنی نیست مثال سلمازی که تا ابد خواهد بود و در آسمان آزادی خواهد درخشید سلماز یعنی پرپر پر نشدنی یعنی گل زیبا و خوشبو که در دور و به مردابی رویده و جان گرفته نابخردان به سودای نابودی و پرپر کردنش چنگ انداختند و پیش رفتند و خیشتن به این مرداب غرق کردند گل مغرور در میان مرداب باز هم زیبا بود زیبا بود و یکتا میانان همه زشتی میانان همه نامردمی تنها بود و تنها زیبایی چشم نواز در دور دستها. او تنها زیبایی چش نواز در دور دست ها خواهد ماند و بر این سیگاره خونین با همان نگاههای معصوم نظاره میکند و تا ابد خواستار حق تک تک انسان هاست چقدر برایم شیرین و قابل لمس بود وقتی که از مادرش میگفت چه عاشقانه برای مادر میسرود شعر تنهایی را چگونه از پدر حلالیت می به واسطه انسان بودن و آرزو داشتن وقتی از مادر می گفت، یاد دستان پرمهر مادرم میافتادم که دوست داشتم به طول تمام عمر آنها را به آغوش گیرم و بوسه باران کنم آن همه از خودگزشتگی ها و دوست داشتن ها، آن همه بزرگ بودن و بزرگواری ها را چگونه سلماز جاودان می گفت و این احساس پاک دنیایی به رویم ترسیم می کرد در بیکران چه بیالایش از دو گفت و من چه شیفته دو جانی شدم که درس زندگی آموختند به جماعت والانشین درس خواندند و ما هم درس ما به کلاس اساتی رفتیم که دنیایشان غرق آمال خیشتنشان بود و آنها به کلاسی از زندگی و میان آدمیان میان هم نوانشان و آنها چه به دنیا پس دادند و ما چه از دنیا ستاندیم میان همان کلمات و واژگان بیالایش چه درسهای بزرگی به سل مازا موختند که او پرپر پر نشود درس بیاموزد به مکتب عشقش که برای او گسترانده بودند برود و مادری را در آغوش گیرد که دردهایش را به آغوش کشیده بود احساساتش را درک میکردم میکو درسها را فرا گرفته بود و باید آنها را پاسخ میگفت و من و برگه امتحانی در برابرم بود که آمخته را پاسخ دادم و هیچ از حقیقت نگفتم از زیار ترکان بود باز همچون منی که و اجداد در آن سرا داشتم از خاکی که درس ایسار داده و به طول تاریخ به مردمش غیرت آموخته و فریاد کشیدن را به بلندای آسمانش به آنان فرا داده است سخت ماندن و سخت گوشیدن زنده ماندن و فریاد و آزادگی را به جویبارهای روانش و این خاک افزونگر آزادگان می به درونش ملتی گرد آورده که به شور پاسخ شعور داده و دل به دریا میزنند و بی پرواخیشتن را به پیش خواهند برد سلماز از خاک اجدادی خودم بود چه بی حوصله از کنارش گذشته بودم و هیچ جز نامی برایم بر دل به جای نماند ریچ با خاندن نوشته هایش از کجا برخواسته پیوند این خاک پاک با آن پدر و مادر دل پاک چه شور و شعوری در من و سلماز بیدار خواهد کرد که بدانیم چه می خواهیم. چه به پیش رو داریم و باید چه کنی؟ این حلقه های اتصال میال من و او مرا به جهانی می برد که متعلق به آنم و باید مثال آزادگانی دل به دریا زنم و در پیش باشم و برایش توفان کنم که گل پر پر نشدنی به وجن همگان زیسته است کتاب <plays Happn forty Buck> فریاد <Malays world> اثر نیماش و بخش پنجم <kills awning> وقتی از زندگیش میگفت چقدر یاد زندگی خودم میافتادم و شاید به یاد زندگی تمام انسانهای جهان حال به تمام تفاوتهای ریز و درشتی که داشت او هم پدر و مادری داشت مهربان و دلسوز که به درازای عمر جان گذاشته تا دختری لایق به تا او از هیچ کاسی رنج نبرد و تبیر کننده آرزوهایش باشند او هم خاکی داشت مثل همه انسان ها. این خاک زیبا بود مثل همه دنیا کوه داشت، طبیعت داشت، جویبار داشت و همه زیبایی که حال در هر جا و مکان به شکلی ظهور کرده و همه چیزش با همه جای جهان یکسان است. هر هرچند تفاوت میان زندگی ما از زمین با آسمان باشد، اما به بطن و حقیقتش یکسان که جهانی یکسان میخواهیم. دختری بود که میخواست مثل همه، مثل آن روزهای من به رویاهایش تحقق بخشد. دوستاش معلم شود یا دکتر، یا شاید مهندس، یا هر کار دیگری. آرزو به دلاشت و برای پیش بردنش زنده بود، دنیایش در پیش بود و آرزوهایش کمی آنسوتر و حال باید با آن کلک ساخت شده دل به دریا زند و با تمام جان پارو پیش گیرد به ساحل آرزوها دست یابد و با تمام تقلا او بود که به پیش میرفت و جان این کلک را پدر مهربان و مادری دلسوز تشکیل می دادند. آب می خوردند که آب نخورد، آرزو می شکستند که با تکه هایش آرزوهای شکسته و دورمانده او را به بند زنند و به طول تمام بودنها درس درست ماندن و درست دادند نه با گفتار که به کردارشان با دیدنشان چها موخت جز درست زیستن نه پدری در پیش داشت که از جان میگذشت و به او جان هدیه میکرد. مادری که همه دنیایش را به پای آرزوهای دور دست او سپرده و در پیش بود و این دختر حال به دنیایش آرزویی داشت. آرزویی دور اما دست یافتنی و میدانست با تلاشش هر چیز قابل و است و پدر را روسپید و مادر را شاد دل از خواهد کرد. میخواست درس بخواند با تحصیلاتش به شغلی در آمال آرزوهایش دست یابد. هرچه که بود آرزو را میشناخت. اگر هم آرزو از آن خود نبود می‌خواست پدر و مادر را به آرزوهایشان برساند لیکن این درس را به زندگی آموخته بود که باید به راه این اهداف تلاش کرد و باز نماند مثال تمام آبهای جاری و خروشان که به سرزمین پدری خیش جاری شد و به پیش رفت و برای آرزوهای از زحمتها کشید و به زودی همه را در اختیار داشت و در این سرزمین رویاها در پیش بود همه چیز چقدر یکسان میان آدمیان که میخواهند به آرزوهایشان دست یابند به جهان خیشتن از هرکس کس والاتر و مهخترند و من و همه در همین آرزوها زنده ایم و برای احخاقش دست صبحا میزنیم لیشان جایی که در برابرت کسی بنشیند و آرزو به دلش گشته باشند هیچ از دنیا نمیخواهد حال که هر کدام به طریقتی این گفته را میشنویم یکی کودکی که از آرزوهای مرده به دلش میگوید و یکی با دیدن ظلمی به همنو و دیگری با دیدن عذابی در حق حیوان تمام ساخته‌هایمان در برابرمان فرو میریزد. میبینم که چگونه پیکرهای در برابر برابرمان پیش بردند و بالا کشیدند که از پای بسش ویرانه بود چگونه به درازای تمام عمر در برابرمان نشان دادند کجی‌هایی که راس می‌نمود و نمیگذاشتند تا ببینیم و چاره کنی نگذاشتند بخواهیم که از پیش درها خواسته بودند و خاسته هایشان خاستهای شد چگونه دنیایی برای من ساختند که خودشان میخواستند و چه ساده روح‌های آزاده و حق طلب من را به درون زهن کشتند و هرچه خود میخواستند به ما خوراندند که ما در روز موعود غی کنیم و به آنها باز دهیم در این مرداب ما را غرق کردند که گل نشویم و روش نکنیم و از دستانشان دور نمانیم مثال آن گل پرپر پر نشدنی که به دیگران درس زیبایی و زیبا بودن ندهیم اما سلماز از آن در خواب مانده ها نشد مثال بسیاری از همفکران و همکیشانش به طول تاریخ از گذشتگان تا به حال و آیندگان که بیدار فریاد میزنند آنها به باور درونیشان به وجنان بیدارشان همکی شدند باورهایی که به ذهن آنها خورانده دهند. آنها به دل بیدار بودند و می دیدند که همه می توانند ببینند و بیدار شوند و این خواب قفلت هزاران ساله را برهم زنند و خواب برای به خواب برندگان حرام سازند این بیدار شدن و بیدار کردن را میدانستم، از هیچ نشد نمیگرفت و هر کس به درونش بدین فریاد ها زنده است. این احساس دین و وظیفه را زنده خواهد داشت اما این ددمنشان به درازای عمر آدمیان را از دیدن باز گرفتند و پرده ها انداختند هجاب علم کردند و آنها را از خیشتند دور ساختند و آنقدر آنان را به جهان کرده کردند که دیگر نبینند و اگر دیدند خود را به ندیدن بزنند که می دانستند پایان این خواب هزاران ساله به بیداری آدمیان راه خواهد داشت و تاج و تخت به دوش بران شدند که همه را به خواب برند تمام اون با آلات و عدوات مختلف برایشان لالا گفتند که آرام بخوابند و هیچگاه بیدار نشوند و این ادوات به درازای تاریخ آدمیان گوناگون بود هر روز لغمنانی تازه در کام خوب می و پس را به ما خواهند خوراند اما سلماز هم دید مثل من و یا بهتر بگویم من هم مثل سلماز دیدم دیدیم اما آنقدر در وجود ما رخنه نکرده بود باورهای پوسیده و توانستیم قی کنیم اما نه آنان پرورانده بودند در انتظار باز پسگیریش لحظه شماری می کردند او هم دید او هم کودکان را دید که چگونه آرزوها را به دلشان کشتند و چگونه می خواستند که به آرزوهای خودش غرق باشد چگونه میتواند کودکی را ببیند به دلش همه چیز را کشتند و دیگر از او هیچ باقی نگذاشتند حتی جنازهای هم از او باقی نمانده که دفع کنند و برایش ماتم بگیریم لیکو بیشتر دید دستهای ای را دید که مرهم بر دستان آفتاب ندیدگان شد دید چگونه کاخ به کاخهایشان افسون میکنند، دید چگونه برخی برابری را برای خود برادر کردهاند او دید و در این دنیا غرق شد دنیای انسان‌های دردمند را دید که درد هدیه می‌گیرند، کار می‌کنند و دستمزدشان را به رنج می‌برند. سلماز همه اینها را دید، دوست نداشت در این مرداب غرق بماند. می‌خواست که به پیش رود، تنها دیدنش کافی نبود، چاره کردن دوای دردش بود. درد میگیری و می, فهمی. می بینی و آری افسرده میشوی اما دیدن دردها برای ماندن و منفعل شدن که نیست اینها شور است اینها چاره کردن است باید به پیش رفت که این زشتی ها در پیش نباشد و دیگر دیدگان نبینند هر کس با دردی روبروست و اگر از چنگال ددمنشان گذشته و آن معص شدگی را گذرانده بود حال میداند که پس از آن نالان شدن نوبت به فریاد است اما هر کس به فکر خیش و با توان خیش راهی برمیگزیند یکی آن دردمند را به آغوش میکشد و برایش درمانی پیدا میکند و آن را به رویا میرساند و یکی در پی پیدا کردن راهی است که دیگر دردمندی نباشد و درد را از ریشه برکند حال تا چه هد موفق است، تا چه هد درد را شناخته و به ریشه ها رسیده و درمان را در چه دیده و به چه طریقتی کشیده شده بحثی دور از این گفتار بود از این گل پرپرنشدنی چه بیپروا از باورهای خود میگفت چه بیپروا به باورهایش است. راه و باور را می خاند و میدانست طریقت ما کجاست و آن روزها و در جوانیش چه جوانانی مثل او دل به تغییر بسته بودند و با باورهای آشنا می شدند که گفته هایش با فکرهای آنان در برابری هم پا بود. یعنی آن سرشاخه نخستین و پدید این باورها هم دردمند بود و درد را میدید؟ دل به تغییر و دگرگونی داشت تا کجا رفته و ریشه ها را شناخته بود و آیا میدانست که چگونه باید این ریشه های کرم خورده را درمان کرد؟ حرف ها و گفته های او از دلش برابری را می تا این نابرابری‌ها را از میان بردارد سلمازی که دل به این تغییر بسته بود و این را وظیفه خود می‌دانست تا کاری برای آن کودکان و دردمندان کند دل و ایمانش در راهان تغییر ها بود برای حرکت برای زنده بودن و زنده کردن و حال در برابرش باوری داشت که راه کار برای این تغییرات می‌داد. در دورنمای نزدیک شهری از آمال و آرزوهای سلماز و سلمازها ونا کرده بود و باید که به آنان دل می بست. آزمودن آن باورها را به چشم ندیده بود اما در برابرش حقیقت می حداقل در آن روزها گروهی می دید که مثل او فکر می کنند دل به راه خلق بستند و می خلقی که به طول این سالیان دراز در بدبختی مطفوع شده را از چنگال این فلاکت رهایی دهند به یاد حرف های گذشتگان میافتاد، دوست دوستاش جمعی شود که بیشتر صدا از دست هایشان تلاوت کند دوستاش به جمعی هم نشین شود که به مانند تمام روزهای زندگی او فکر کرده و همان آرمان را به سر می پرفرانند. چقدر برایش مقدس می نمود آن روزی که جمعی در برابرش می دید که همه را برابر می بینند. حال که در آینده خودشان را برادر برابری خطاب کردند او را چه کار در آن روزهای پیشتر که دل به برابری بسته بود؟ حال که در آینده باز به آمال و آرزوهای خودشان غرق شفند و باز آن روحیه انسانی را به اهدافشان راه دهند راهی بود دور از دیدگان او و هم نسلانش. او با باورهای چپ آشنا میشد و هر روز دل به این دریای مواج می سپرد که او را به ساحل آرزوهایش برساند. دیگران پدر و مادر نبودند که با جسمشان، با جانشان چلش برای او بسازند و شاید آنها که خیشتن را کلک میکردند در پی آب خوردن نبودند جانها آب نخورند، میخواستند آنها را به پشت سوار کنند تا وارانه اینان را به سرمنزل مقصود برسانند و تمام آبی که در این مدت خوردهاند را یک جا به کامشان بریزند اما او که از آینده و حال آنان با خبر نبود سلماز گلی بود پرپر پر نشدنی دلی داشت دریایی که به طول تمام این سالیان دردها را دیده بود دل به تغییر شرایط و جان دادن به این خلق اسیر مانده بسته بود و این راه در برابر را محترم شمرد محترم شمرد این جماعتی که دغدغه های او را فریاد می زدند. از پایان راهشان خبر نداشت پس به آنان ملحق شد به گروهی از چپگرایان باور پیدا کرد که شاید نزدیک ترین باور را به باورهای خیش در آنان میدید. میخواست رویاها زودتر عملی شود به رویهایش دست یابد. دوست داشت همه آرزو داشته باشند و دل در گروه این تغییر با این جماعت هفت رنگ یک رنگ شد و دست به برابری دراز کرد و با آنان یکی شد و در پیش رفت تا جهانی لایق بسازد حالا دیگر خودش را یکی از اعضای این گروه میدید. هم نسلان بیشماری چون خودش که برای هدفی والا برای برابری انسانها میجنگیدند دوست داشت تغییر دهد از همه چیز دنیایش گذشته بود همه چیز دنیا را در همین تغییرات می دید. حالا هر روز که بیدار می دنیای آرزوهایش را در برابرش ترسیم می کرد در آن به آدمیان جان میبخشید و در این رویای میان زه آنها را برابر در کنار هم ترسیم میکرد که پر از آرزو به آینده ای در پیش می نگرند و برایش تلاش میکنند. دل به این سرزندگی مردم میبحث به رویاهایش میدید با همین جمعی که در کنارش هست باید که هم صدا شود و با همین حق مظلومان را باز ستانند و یک صدا فریاد بزنند. خودش را در کنار همباوران می دید که به درازای سالیان دل به این تغییرات بستند حال سرشاخه ها و روحس ها در سرچه چه پرورانند باز به با آن دریای آرزوهای خود غرق شده و آزرند برای تحقق آرزوهای خیش آرزوی دیگران را به مهراب ببرند و قربانی کنند دور از ذهنش بود این جماعت هم را می دید که چگونه با هم همسدا شدند و آرمانشان همین تغییرات است. او به جان از آنان قوت قلب می گرفت و قدرتمند می شد. همه جانش را در گروی همین راه می که دست در دست این جماعت همسان جهانی بسازد برابر و رویایی نداشته در سر آن کودکان که آن را تحقق بخشند. آنقدر حقیقی که کسی در رنج برای دیگری بیگاری نکشد او کاخ به کاخهایش نیفتاید و این را سالیان بود که به دل پرورانده و حالا به راهش و است می گفت که چگونه در تمام تمامان روزها از هیچ فرو گذار نبوده و تا آخرین نفس دل را به این دریای مواج سپرده از تمام آرزوهای شخصیش دست کشید تا آرزوی همگان جان گیرد ترک کردن آن درس خواندن میان دانشگاه را به اعماق قلبش دف کرد. دست در دست هم باوران به صحن و خیابان ها برای محقق کردن آن رویاهای دور فریاد میزد از جان میگذشت سینس تبر می کرد تا در برابر گلوله ها جان فشانی کند تا در دور دست ها کودکی با آرزو بخوابد به امید همان آرزو سر از بالین بردارد. حال در میدان جنگ به پیش میرفت و برای تحقق آرمان ها و آرزوهایش از جان گذشته بود. هر روز میدان شهرها کارزار این رویاها ها بود. حال جماعتی به خیابان بودند تا این حق رو بوده شده از خیشتن را باز پس گیرند و سلماز پیشاپیش همهشان در صفح نخستین فریاد میزد وقتی از برابری می گفتند آن واجه های مانده در کتاب های پوسیده و خاک گرفته نبود که با فریادشان آن را تعبیر میکردند و به واژگان جان میبخشیدند و جان به جان واژگان می سپردند. جان برکف در آرزوی والا در پیش بودند که اگر دشخیمان آتش کشودند با خون سرخشان واژه برابری را دوباره صرف کنند نه اینبار بار رنگ کنند که خونین کنند تا آیندگان بدانند این برابری با خون پاک آنها رنگ گرفته و درخشان است سلماز می گفت که در راه انقلاب دیرین چگونه دوستانش باوران و همه مردم ایران از جان گذشتند و چگونه در برابر آن سیل از دوستان و باوران پرپر شدند سلمازی که دوستان بیشماری را در این راه از دست داد و در برابرش رخت بستند از این جهان زشتی ها و خیش این گل پرپر زنده ماند و چشم گشود که سمره این تلاش را به چشم ببیند و از شادی این پیروزی لذت ببرد آن سیل خروشان سرآخر وظیفه خود را به پیش برده بود آن شورها در دل جوانان پیش میرفت و به سرمنزل مخصود رساند اما در بالا و نوک این هرم باید که شعور میشد. باید راههای درست اتخاذ میشد که مردابی از نو بنا نکنند. حال دشمنانی به شکل گل روییده به این مرداب سرستن دیگر گلها نبرند و آنها را پرپر پر نکنند. جوانان و میلیون سلماز به وزیفه عمل کردند، دانستند دنیا پر از کجی و زشتی است، برای تغییرش از همه چیز گذشتند و به میدان آمدند و پیش رفتند، فریاد سردادند، دل به روحی بستند که از آرمان آنها حرف میزد و طریقت از راه بهبود میداد، آرزو به دست آنان سپردند و آنها باید به شور اینان شعور هدیه میدادند، و در آن بالا و پیشترها راهی میجستند که این جماعت را به سرمنزل مقصود برساند. باید این نهال تازه رویده را مراقبت و محافظت می تا دوباره به کشی راست نشود و ریشش را کرم نخورد. شاید به بعد اصلا ریشه ای نشناخته که بخواهند درمان کنند شاید اصلا نمی طریقت کجاست و همان تهمانده و پسمانده ها را تناول کردند و امروز باید قیمی کردند و پس میدادند به صاحبانش آن افکار پوسیده و زشت دور بود از دنیایی که به دلها و رویاهای هزاری جوانان جوانه زده بود و پیش می رفت و این جماعت پر از زشی و فریب خیش را هم فریب میداد. آن هم شور را به شعور نسپردند و همه چیز را زایل کردند مفتخارگان. مفتخارگان باز هم برخواستند، لباس میش را کنار زدند و دندان نشان دادند، از میان مرداب ها سر و از شانه های شدگان استفاده کردند تا پیش آیند و بر دوش آنان پیش روند و همه گل ها را از میان بردارند. سلماز با چه هرسی از آن روزها میگفت از روزهایی که به مدت تمام عمرش دل در گرواش داشت و برایش تلاش کرده بود و قاصبان چگونه رویاهای آنان را دزدیدند باز شروعش از همان راههای پیشتر بود باز هم آرزو را از همه قصب کردند و همه آرزوها را از آن خودشان کردند از آرزوی دیگران چیزی به دل نماند خودشان را به گلها چسباندند نزدیک شدند مثل خاری که به گل مانده و سرآخر نیک زدند از همان چسبندگی خود را شبیه کردند آنقدر با آنها نزیش شدند که حتی میان مرداب‌ها هم سر برآوردند و با گلها یکی شدند سلماز می که به چه سودایی و برای چه آرمانی جنگید جانبرکف و حکومتی قدرتمند با دست خالی مبارزه کرد و چگونه آمالش به دست کسانی افتاد که به فکر تغییر جایگاه ها زیر این علم سال‌ها سینه زده بودند چگونه سالیان می‌خواستند که جای مترسک ها تغییر کند؟ آن مجسمه و بوت پایین کشیده شد و جایگزینش بوتی تازه بود و به صدای همین سالها لباس میشی به تن کردند که سرآخر میشها را بدرند و رویاها را پرپر کنند؟ با صدای بلند میان افکار و نوشتههایش فریاد میزد. از انقلابی که روبوده شد، غصب شد، زیده شد و بار دیگر مفت خارگان به گرده های آدمی سوار شدند از اینان راه ساختند تا به اهداف خیش برسند خیش بزرگ و در فراز بنشانند و جماعتی به پایشان سجده کنند بوسه بر دستان ننگینشان بزنند نامها تغییر کرد ها عوض شد اما باتن باز هم همان بود چه تر و کریهتر هزار بار میان نوشته هایش می گفت که آن همه فریاد برای چه بود آیا فریاد زدیم که پابرهنگان برخیزند و جای آزمندان را بگیرند و سرآخر همان آزمندان پابرهنه شوند؟ آرزو مردگان آرزوی دیگران را برو و تعبیرش را در مرگ آرزوی آنان بجویند که جای با جای تغییر کند و باز همان دیرترها با چهرهای تازه بناشود. شاه برکنیم، رهبر بر جایش بنشانیم، تاج برگیریم، امامه بر سرش بگذاریم، پوتینها را به زور با خونهایمان هایمان از میان برداریم و نلین به پایشان کنیم. صورتها تغییر کرد باطنها ها همان و زیشتر و پلیدتر باشد باز هم کودکان باشند باز هم نگاه ها باشد و هر روز به شمار دردمندان مندام بیفزاییم که این دیوان پیش آمده تا جیب ها پر کنند مرتبه ها پیش برند جا به پای خدا بگذارند و در عرش به این زمینیان نیشخند بزنند و تمام رویاه های ما را به کابوس شوم هزاران ساله خود بکشند سلماز فریاد میزد از آن همه فریاد و جنگ به باد رفته از دست از دست نااهلان و دیورویان غصب شد، دو دوزیدند و بردند و خوردند و فریاد زدند دلش خون بود از آن سرنوشتی که برایش ساخته بودند از آن همه زیرکی که به کار بسته بودند چگونه به درازای سالیان بسیار لباس میش بتن کردند و آرام آرام نزدیک شدند انقدر مسک کردند که هیچ باقی نماند و هیچ نفهمید که و کجا آن را خاموش کردند و لبها را به هم دوختند و زبان به کام ماند و دریده شدگان لبخند زدند از خود گله داشت چگونه ندید و نفهمید چگونه به درازایان همه سالیان همه چیز را از یاد برد چگونه ریشه ها را نیافت و برای بهبود ریشه ها عمر به پیش نبرد چگونه خام چرب زبانی آنان شد خودش که از والاترها و والانشینان درس می گرفت آنان خیانتکاران به کلاس درس میرفتند رفتند که شاید ای به چنگ آورند و در این جنگ غنیمتی به منزل برند و این جماعت را به پیش می هرچند سلماز تا این حد بدبین نشده بود و همه را فریب خورده می پنداشتم آشای بعدها میان باقی نوشته هایش گاه و بیگاه از این الفاظ استفاده میکرد و اینها را به کار میبست. تمام وجودش فریاد بود از راهی که به درازای تمام ععم برایش از جان گذشت و سرآخر به دست جمعی مفتار و مفتار رو بوده شد و هیچ از آن باقی نگذاشتند کتاب فریاد اثر نیایشهساری بخش ششم. باز هم سلمازی بود پرپر پر نشدنی با دریای از آرزوهای در پیش که میدانست دیدن تمام این کجیها شاید چند سواهی او را دل زده و دل مرده کند اما دل برابری خواه او هیچگاه آرام نخواهد نشست و دل به دریای هر طوفانی خواهد زد هزاران بار به درون میگفت: باید دوباره دست بر زانو گذاش و به پای خیش از جان برخواست و دوباره راه را آغاز کرد و دوباره با جانی خسته بنایی شد که به طول سالیان درازی تمام عمر آرزوی را کرده بود. پس از پای ننشست دوباره جامعه رزم پوشید و پیش رفت و در برابر زشتی ها ایستاد که بفهماند هنوز زنده است هنوز پویا و جویای رسیدن است هیچ از پای نخواهد نشست و این آرمان و آرزو به دلش ریشه دوانده و برای تحققش از جان و دل می گذرد و تا انتها در مبارزه خواهد بود یا جانش به ستانند یا تحقق این رویاه ها را به چشم ببیند باز هم راهش فریاد بود به پیش رفتن بود و مبارزه کردن و باز هم همان مسیر دیرباز را در پیش گرفت باز هم در برابر ظلم ها ساکت ننشست و فریاد کرد حال اگر دور زمانی پیشتر با ظالمی تاجدار می جنگید آن روز فهمیده بود که دیگر باید با عباب تنان مبارزه کند باز هم همان طریقت و ریشه زلم را برکندن در پیش بود اگر جماعت بیشماری را خام کرده و مسک کرده اند که به طول و درازای سالیان خواهند فهمید آنها برابری را برای خیش برادر کردند او همان روزها و میان همان ددبنشیهای نخستین فهمید و سکوت نکرد باز هم ریشه دواند و میان همان مرداب که به تصرف مفت خارگان و دغلبازان در آمده بود روش کرد حالا زشتی ها هم به این مرداب جای گرفته و لجن ها ریشه می و پیش میرفتند و به شکل گلی سر برمی آوردند که وجودش همه خار بود و میخواست تیشه به ریشه پرپرناشدانی ها بزند و به خیال تاری کشین راه را تیره و تار کند. اما گل همیشه بهار همیشه شکوفه دارد و آن دیار به خاک نشسته و لجن مال شده جان گرفت و به صدای بیداری و پروراندن پیش رفت. سلماز کوتاه نمی آمد، از آرمانی که همه وجودش را دربر گرفته بود، به صدای برابری از همه چیزش میگذشت و برایش آماده هر از جان گذشتگی بود و سراسر وجودش ایثار شد، باز به میدان بود، باز فریاد میزد، زد، باز ددمنشان را وحشیتر از پیش می کرد چند باری گفته بود که در زمانهای دور و میان قدرت تاجداران هم به زندان و اسارت در آمد. لیک این زندان چهره دیگری داشت و قدرت به دست فرسان افتاده بود که برای اعمال شنی فرمان میدادند. دستور نه سروری تاجدار بر زمین که از قدرت ماورایی پیشتر در آسمان می و حال دنیا جهنم میشد و سیاه آسمان به زمین می رسید. نمی توانم باز همان خون نوشته ها را به خاطر بیاورم تک تک کلمات و جمله هایش به ذهنم حک شده و حال دیگر بازخان زبانی بودم که بریده به ذهن حرف ها را می پروراند نمی شد از دورتری گفت نمی شد از خیشتن گفت فقط صدای بی صدای آن خون نوشته ها در ذهنم فریاد می زد حال سلماز بود که صحبت می کرد فقط اوز که حرف می زند و بیداری جهان را فریاد کشیده است در اتاقی نشسته با هم صحبت می کردیم باز هم برنامه می ریختیم که کی و کجا دست به اعتراض بزنیم با چراهی می توانیم این دیوان که پوسین فرشته به تن اند را رسوای شهر کنیم مدتی بود که جمعی زندگی می کردیم در خانه به شور می نشستیم تا راهکار تازه ای گرد آوریم. قدرت فکر جمعی بسیار فراتر از فکرهای فردی من بود از آینده در پیش رو خبر داشتیم هر روز خبری می رسید که خانه ای از بچه های ما و دیگر گروه ها که پای کرده و از موضعشان دور نشدهاند لو رفته و جمع دستگیر شدهاند. خبرهای بیشماری از ترور و کشار بچه ها به گوشمان می رسید و از زندانهای جهنمی این دیف فرستان ترس در دل داشتیم احتمال اینکه که لحظه به خانه بریزند و همه را از زیر تیغ په یا به جهنم به سپارند را می کشیدیم. اما با آرمان و آمال بزرگ در طول تمام این سالها آماده رویارویی با این دیف صفتان را داشتیم و جان را در پیش گرفته تا در راه حق کنیم. در همین حال و هوا و در میان افکار و راهها بود که یکباره صدای شکستن شیشه به گوشمان رسید. در چشم برهم هم زدننی دودی محیب فضا را پر کرد، اش از چشمانمان جاری بود توان نفس کشیدن نداشتیم، نمیدارم در آن حال و هوا اش به حال خودمان میریختیم و یا برای چشم های منتظری که شاید مع شده و چیزی نمی بینند. اما آینده ای در برابرشان بود ما آن آینده را بارها و بارها دیده و حال برای آن روزها اشک میریختیم. در چند دقیقه تعداد بیشماری به داخل ریختند و هرکس که توانست پایمردی کرد ما گروهی مسلح نبودیم که در برابر تیر و فشننگ آنان به سر پاسخ دهیم و بیشتر اهداف ما به روشنگری و بیداری آدمیان و نشست و برنامهریزی برای ساماندهی اعتراضات بود آنها که به صلاح ددمنشی مسلح بودند در چشم برهم زدنی همه را دست و پابسته به در درآوردند و به پیش بردند تا به سیاه بسپارند. خیم شبازی خوب به خاطرم هست که چگونه ما را دست و پابسته به بیدادگاهی گاهی و و آنجا ملیجکی پیش می‌آید و خوش شخصی می که به بار اتهامات ما افزون کند. متهم نبودیم از همان پیشترها مجرم شناخته شده و خیلی قبل ها حکممان هم صادر شده بود حال در این خیمه شب بازی هر کس سالیان درازی حبس می گرفت تا دور بماند تا صدایی بر نخی زد فریادی شنیده نشود من هم حبس طویل مدتی گرفتم دست و پا بسته به قربانگاه پیش رفتم تا به روزی خاص قربانی در برابر پای ظالمان شوم باز هم زندان و باز هم اسارت در این سالیان مبارزه بارها به زندان رفتم، هم در زمان شاه منحوس و حالا که زمان زیادی از انقلاب رو شده نمیگذشت در این حکومت جور و فساد هم زندانی شدم. زندانها خیلی با هم متفاوت بود، حالا به زندانی می آمدم که نه سیاه ساخته شده به دست آدمی که جهنمی با اندیشه های آسمانی بود، حال باید به جهنمی پای میگوزاشیم که پیشترها قانونش از دور دستها و از آسمان بعید شده بود و حکم زن کافر از پیش تعیین شده بود فضای زندان سرد و تاریش بود انگار رنگار که این همان زندان دورترهاست همان زندانی است که من بارها در زمان شاه به آنجا پا میگذاشتم جای جایش را میشناختم گویی دیوارها و میله‌ها هم شنیده بودند که باید جهنم شوند آنها شیک باخته و دوباره ترسیم شدند دوباره تبیر شدند و سراخر سیمایی به خود گرفتند که تا آن روز نظیرش را ندیده بودم به محض رسیدن صدای فریادها در گوشم تنین انداز بود باز هم صدای ناله ها و زجه ها باز هم تیخ کشیده و می درند جانهای بیشماری که فریادشان حق طلبی و برابری است در راه روی سردشگان برمی داشتم و پیش میرفتم و این خانه دیرباز چه رنگ و روی عوض کرده و از نو ساخته شده بود باز هم میهمان همین تفکرگاه بودم می توانستم سالهای در پیش را فکر کنم دوباره خیشتن را بسازم دوباره از پیله در بیایم و پروانه شوم اما صدای ناله ها و فریاد ها نمی گذاشت. این بار دیگر مثال قدیمان خانه مسکوت نبود که فکر کنیم و باید صدای ناله ها می شنیدیم و رعشه به جانمان میافتاد. می زنانی که سیاه پوش سیمای فرشتگان از را ترسیم می کردند. سیاهی رخسارشان را پوشانده و مردانی که چهره به خونخارگان بدل کردند اینها انگار تعلیم دیدند برای عذاب و شکنجه انگار سالیانی است که در پسو مانده و آمده اند که در روز موعود پیش بیایند انگار خداوند به فرشتگانش امر میکند تا شیپور بنوازند شیپور اول نواخته میشود سر برمیآورند خفتگانی که به درازای اوم در آن پسو مخفی مانده و حال روز بازپسگیری و انتقام است انتقام از و است که برای کدام این کارهای کرده و نکرده برای کدام این جنایت مرتکب شده؟ به جرم خواستن برابری، به جرم فکر کردن، به جرم آرزو داشتن صدای زدگه ها رعشه به جانم میانداخت. فریادها ها و صدای بالا و پایین شدن شلاخ ها خواب و فکر را بر من حرام می کرد. حالا باید باز افکارم را جرد خود بنشانم و دوباره به همه آنها فکر کنم زنی چادر به سر به رنگ ظلمات در برابرم بود. نگاه به چشمانش که چه بیروح به من چشم دوخت و هیچ برایش مهم نیست. به او فهماندند که من چه دیو پلیدی هستم. حال اینگونه با دندانی تیز کرده در پی انتقام است میله ها تنگتر و تنگتر می شود و بیشتر به جانم فشار می آورد در حال نزدیکی بود در دورده از مردی ایستاده با توفنگی سرپر آماده شلیک است صورتش را ریش پوشانده و به زخامت همان ریش ها به دنیایی افتاده که هیچ نمی بینند و هیچ فریادی را نمی شنوند زیر بغل و دست هایم را گرفتند مشکی پوچان و زنان پنهان در چادرها دست و پا می بندند. به پیش می برند. در اتاقی که صدای زجه ها به نزدیکی دیواری حائل بینمان به گوش می رسد به تختی بستند دست و پایم را حال فرمان می دهد و می تازد پیش می رود و جانم را می کاهد. ضربت اول بر جانم را خوب به خاطر دارم دردی تمام وجودم را پر کرده بود حتی احساس پاره شدن پوستم را کاملا و با تمام وجود حس می کردم و قطر و اندازه این پارگی را میدانستم. درد به تمام سلولهای بدنم رسوخ می کرد و چهره آن کودکان در برابرم بود که چگونه به من چشم نوختند، چگونه لب میگزند و صدای بیرون نمی دهند که من هم صدای بیرون دهم به فاصله کوتاه ضربه دوم را بر تنم حس میکنم دردش امانم را میبرد باز شلاق ها یک به یک بر تنم فرود می آید و زخم به جانم میزند خون به زمین میچکد سر بر تخت مانده و به زیر آمده قطرات خونم را بر زمین میبینم با فشار دندان به دندان میکوبم که صدایی بیرون نرود و جلاد از کرده سرمه است نشود ضربه میخورم به درون فریاد میزد تمام دردها را در جانم می بلم و زره از آن را بروز نمی دهم پشت هم می آید و جانم را می درد کم کم حس نمی کنم هیچ حس نمی کنم چشمانم آرام بسته می و دیگر هیچ نمی بینم تا صدای از آن. باید با صدای ازان به گوش باشم تا بار دیگر طعم پر درد شلاغ را بچشم. جای تازیانه به اماق سینم و برتن هفت کنم و با دردش دوباره بسوزم و زنده شوم. هی هیب پیش و پس میرفت گاه می سوزاند. گاه زج میداد گاه هفت می کرد. تنم لانه آن چند متر کاپ شده بود. میامد تا در آغوشم آرام گیرد او هم درد داشت از آمدنش میفهمیدم. از خوردنش میدونستم که او هم درد میکشد و جلادی در پیش از این درد امان لذت میبرد گاه لبخند می زند گاه صدایش به قحقحه بدل میشد و این بار تا آخر میدیدم و همه را میشنیدم سر با پشتی خونین به سلول میبرندم و در گوشه ای انداخته میشدم صدای بلند قرآن به گوشم می میرسید فریاد میزد و هل آن را میشنیدم از صبح تا شام به گوشم می رسید و گاه میانش لرزه بر اندامم می و می ترسیدم. تمام جانم درد میشد دوباره زیر بغل ها را می و به اتاق زجه ها می بردند باز میبستند به تخت این بار به کف پاهایم تازیانه میزدند دیگر همه چیز مثل روز اول آن ضربه ها نبود حال ترسیده بودم ناله میکردم و فریاد میکشیدم درد به جانم رسوخ کرده بود خون از پایم جاری میشد جلاد از ناله هایم سر کیف می آمد و با قدرتی بیشتر به پاهایم می کفت. او به انتظار از آن می نشست تا فرمان خدایش را پیش برد تا کافرزنی را مؤمن و دیندار کند و منی که با شنیدن صدای اذان رحشه به جانم میافتاد. هرچند درد میکشیدم، میترسیدم می, کشیدم، می ترسیدم، اما باز هم در فکر به ذهنم فریاد میزدم زدم که باید به آرمان و آن نگاه های کودکان و دردمندان وفادار ماند باز هم شلاخ ها به کف پایم و باز درد جان فرسایش به وجودم دوباره میزد خون میریخت خون ها چرک میشد عفونت میکرد و پایم را پر می کرد آنقدر این زخم ها سر باز کردند و خون خشک به روی هم بستند که چرک تمام جانم را گرفت حال با ضربت وحشیانه جلاد چرک سر باز می کرد و به بیرون میریخت تمام زشتی های مانده در وجودم بیرون می و زمین را از چرک و خون سیراب می کرد و شاید خدا هم هنوز سیراب نشده در انتظار درد تازه است. اینقدر کلا خورده بودم که نمی توانستم بیستم چهار دست و پا راه میرفتم و باز اتاقی تنگ و تاریک که از هر سو دیوارها به سمتم هجوم می آورد و صدای ناله ها از قرآن با ناله ها در شکنجه رعشه به تن میداد و در بندان آتش می گرفت و با این ناله ها خاکستر می شد باز هم روزخانی متنی که مرا به این درد کشانیده بود و باز هم قراعت همان دردها با کلامش باز به چشمانم بیشمارانی بود از هممندی و اطرافیان که شلاق میخوردند و دست و پابسته پیش میبرند و میسوزند صدای قرائت قرآن با فریادهای همبندیان بازو بسته شدن درپها صدای پای پوتین سربازان آن چادرهای مشکی بر سر زنان که همه جایشان را پوشانیده و ذهنم تصاویری ترسیم کرد که کابوسوارانه بود در عین بیداری جهنم در برابرم بود قرآن میخواند و زبان عربی هیچ نمیفهمیدم اما این کلام حال برایم ترجمه میشد و تصاویری میساخت از حلقاویز شدگان از در آتش ماندگان رویاهایی که به دنیا میدیدم از انبور در دست ناخون کشندگان از فریاد و جیغ و ها، از زنانی که از پستان آویزان شده در برابرم هستند با صدای ناله را میشنوم از درب بغلی از سلول کناری که آرام لالایی میخواند برای فرزندی که در شکمش سخت کرده اند و مادری که آرام برایش لالایی میخواند که کودک آسوده بخوابد. این خاطرات همیشه همراه هم بود حتی در روزهایی که دیگر این شکنجه ها در کار نبود حال ما در زندان این دیف اسیر بودیم و محکوم به ماندن در این سیاهچال. راه در برابر ما نبود جز ماندن و رنج بردن لیک آن کابوس ها هر روز و هر شب همراه هم بود همیشه در کنارم هم دیدم مادران کشته شده تعف های بی جان مانده در شکم مادران پاهای تاول زده صدای گاه و بیگاه قرآن و تلاوت این آیات ظلم به از آنهایی که مو به تن راست می‌کرد، هنوز هم بودند کسانی که باز شکنجه می‌شدند و درد می‌کشیدند. من و بعضی از دیگر زندانیان را به حال خود رها کرده بودند که در این کابوس‌ها زنده باشیم و باز هم درد بکشیم. شاید شرایط آرام تر شده بود، اما هیچ گاه پایان نداشت و این شکنجه‌ها با وقوع حادثه تشدید می‌شد. گاه آرام و خونسا ولی باز هم در این خونسا بودن من دوباره کابوس میدیدم. هم جهان آسمان و هم دوزخه برزمین از هم شده و با هم بودند و همواره در برابر چشمانم بود شاید هزار بار فکر کردم که این راه درست نبود و راه را از بیراه رفتیم اما به هدفم ایمان داشتم برابری و آزادی چیزی که همه عمر برایش جنگیده بودم شاید مسیر از کجراه بود شاید اشتباه کردم و کردیم اما هدف درست بود و باز دوست داشتم راه تازهی بجویم. زندان پر شده بود از خبرهای زد و نقیص چیزهایی که دیوان به ما میگفتند و ما میدانستیم همه دروغ است. حال من که از پیشوایانم حرفی به میان نبود و آنان که میفهمیدند چه کلاه گشادی از سوی قدرت پرستان دل به جهان فروخته بر سرشان گذاشتند و به ریش نداشتهشان میخندیدند اما اینها از زبان مزدوران و دیو فرسان شنیدن که حجت میشد و آرمان در برابر بود برای هدف والای به این سرار رانده شده بودیم و دیو به هر زشتی دست میزد. تا ما را از راه بازی استاند ما را از هدف دور کند و در خیشتن بمیراند هر روز به شنیدن این اخبار عادت کرده بودیم و بیشتر دروغ این پلیدان برای من آشکار می اصلا نیازی به شنیدن نبود ما به دل شنیده بودیم صدای زدجه و ناله ها را خون در فضا پیچیده بود بالاخره صفحه آخر در برابرمان بود حالا دیگر فضا را پر کرده بود زشتی ها و زشت منشی این دیو رویان بدصفت که با حیعتی سه نفره به دروازه های سارتگاه من تافتند حالا می دیدم که چگونه به تفتیش باورهای ما و این نسل فریاد برآورده می پردازند و چگونه می خواهند همه را از زیر تیغ بگذرانند چگونه این جسم های زخم دار ما غذای لاش خاران شد؟ گروهی در برابرمان بود شامل سه نفر که دنیایشان را به دیو فروخته و دینشان فریاد از همین زشتی هاست حال می نشستن در برابر آزادگان تفتیش و تحقیر می کردند بر سر موضعت باقی مانده ای به خدا باور داری؟ حاضری همراه و همرزمت را بکشی حاضری در جنگ به روی مین بروی و در سپاه ما مبارزه کنی و سوال از این دست و پاسخ پاسخهایی که اگر مقایر با جواب از پیش تعین شده بود سر به جوخه دار و تم به گلوله های سربی نیست و مرگ در همین نزدیکی و در پیش روی ماست حال ما مادران به پیش می پاسخ می دهند و جان و جهان به پایا می رسانند. حال دختران کجا می وای از این همه دیوانگی ها وای از این روانپریشی دیف پرستان همه میدانستیم چه که سرنوشی در انتظار است است؟ هر روز می شنیدیم که چگونه دوستان من که با تمام وجود به آرمان و هدفشان پایبند بودند با پاسخی جان تسلیم می کردند که راهشان تا ابد زنده و پایدار خواهد وحدت بود آن گروه سنفره که به اجماعشان مرگ و زندگی میدهند مرگی با عزت و پایداری بر باورها و زندگی به شرط توبه، به شرط دوری زندگی به قیمت دوری از خیشتن پوش کردن به تمام فریادها و زجه ها ناله ها و عذاب ها دیگر به چشمان کودکان نگاه نکن دیگر به فریاد مستمندان گوش نده هیچ نکن خون ساب من و مردگی کن و سیل خروشانی از بهترین ها از برترین ها از آزاد برادگانی که از همه چیز دنیایشان گذشتند و چیزی نمانده جز جانی در که آن هم هدیه به راه برابری و آزادی است این درخت نوپا باید که جوان زند برخی زد. باز هم فریاد شوند و بدانند بیشمارگانی در دورترها مانده و فریاد زدند و حتی از جانشان هم گذشتند برای این نهال زیبا و کوچک حال دیگر همه ما می دیدیم. همه با چشم ها, ها را می دیدیم، صدای این گلوله‌ها در زندان می پیچیت. در این گرمای سوزان تابستان می سوزیم و می سوزیم. از این همه زشتی دی فرسان که چگونه کشتند، چگونه عذاب دادند تا سلطنت کنند، ما سوختیم و ساختیم تا فریاد بمانیم تا صدای مان جاودان و راه من غیر غیرقابل شکست شود همه را میدیدیم میدیدیم چگونه این گلهای زیبا را میچینند و با نهایت وحشیگری با چند سوال آنان را محکوم به مرگ میکنند میدیدیم که چگونه اجساد را سوار بر کامیونها می و میدیدیم چگونه اجساد روی هم در خاک دفن می و قبرستان دست جمعی ساخته و همه را به درونش می ریزند و پایه های این حکومت ننگین بر جنازه ما استوار شد اما این قائله زشتی سر آخر ندارد و دروازه های زشتی اینان بی پایان و ادامه است چگونه فتوا می دهند به تجاوز؟ بکشن چگونه مسخ شدگان را به جان آزادگان میفرستند تا جانشان را اسمت و پاکیشان را بدرند که خدا فرموده مبادا آنها به بهشت بروند که دختر باکره را نباید کشت باید فتوا داد باید جهنم به پا کرد جهنمی که در پیش روس باید بی اسمت کرد باید به زور زن کرد باید تجاوز کرد تا مبادا ای به بهشت رود و این تجاوز شدگان تومه بهتری برای آتش سوزان جهنم شوند که چندی پیش وجودشان اسمت و پاکی و همه تنهایشان را کشتند همه را می‌دیدم همه را می‌دانستم دوستانم هم می‌دانستند تمام آن آزادگان بی‌پروا و بیباک، آن دختران و زنانی که دلشان دریا بود بهترین‌ها بودند تعبیر تمام رویاها ها بودند همه می و پیش می رفتیم با تمام وجود به هدفم باور داشتم میدانستم که باید بجنگم و حتی لحظه ای دور ننشینم که شاید کجی را دیگران به راهمان بستند، شاید زشتی به بار آوردند، لیک من که با تمام جان در این راه بودم و از هر کجی خیشتن را مسون داشتم و همواره به هدفم ایمان و برایش همه کار کردم، حال جانم را تحفه این راه بزرگ میکنم که جاودانم که هدفم تا ابد زنده خواهد ماند و هیچگاه باز نخواهد ایستاد و من با جان و خونم این طریق را جاودان کردم و آن گل پرپرناشده را تا ابد زنده نگاه خواهم داشت که هزاران گل از میان خونم روییده شود و سرآخر جهان گلستان شود هیچگاه از باورم پشیمان نشده و نمیشم در تمام این لحظه ها به مادرم نگاه می کنم. به دستان پرمهرش مینگرم که چگونه عمر و جان و آرزو به راهم گذاشت به پدری نگاه میکنم کنم که مثل کوهی همیشه در کنارم بود و حال با نبودنم چه خواهند شد چقدر آرزوی دیدن چهره معصومشان بردل است چند بار به ذهنم دوره کردم روزی که پدر بداند با دخترش چها کردند تنش را با جانش پاکی و اسمتش دریدند که سراخر دهند به عنوان مهر آن روز پدر چه میکشد؟ کمر چگونه خم می شود؟ دنیا چگونه بر سرش آوار خواهد شد؟ مادرم از رنجهای من چه دردها که نمی کشد؟ تا کجا روان خواهد شد؟ و این آتش وجودم را بیشتر و بیشتر می کند اما آنها همین دختر را درک می کنند چون درس مهربانی از خودشان بود از درد آنان درد کشید باید به این دختر حق دهند که به هدفی والا جان داد و همه چیز را دانسته تجاوز به تک تک آن دختران گلوله ها در بدن خفه شدن به پای چوبه های دار همه و همه را هر روز تجربه کرد هر روز درد کودکان را دید و لمس کرد باید بدانند که اگر می ماند به همه خیانت می کرد. با دلش به خیشتن خیانت می کرد می درد در برابر است مرگ در روبرونش نشسته و دیوان برای جان و تنش دندان تیز کردند اما باید که می ماند باید فریاد میزد میدانم که خواهم مرد میدانم جانم را تکه تکه می کنند و تمام دردها را کشیدم. نوشتم و گفتم تا بدانید ما به راه هدفی والا جان برکف هر دردی را به جان خریدیم که جهانی بهتر و لایقتر بسازیم. جهانی که در آن همه آرزو کنند، جهانی که در آن جمی مفتخار آرزو را نکشند. از تو میخواهم که خیش باشی و حتی لحظه باز نسی. ما ماندیم و پرپر شدیم که راهمان جاودان بماند و پرپر نشود تو باید باز نیستی و هرچه به تو آموختند را سنجش کنی و باید باور و ایمان را به آزمون بگذاری و راه پیشه کنی و با تمام جان و وجودت به راحت بمانی دنیا تغییر دهی که همه چیز به دستان من و توست من درد میکشم و جان میدهم هر عذابی را به جان میخرم. مردم آرام در گوشه نفرین شده به خاک انداختند و رفتند و هر نام زشی را به من وصل کردند. اما چشمانم همیشه باز است من دنیا را مینگرم که گل پرپر نشدنی باز هم به جهان خواهد رویی. کتاب فریاد، اثر نیما شه سواری، بخش هفتم توشه بازگشت به خانه را جمع کرده بودم. پشت در به خواب نشستم و در انتظار دیدن پرندگان ماندم. دلم برایشان خیلی تنگ می شد. در این روزها ساعتها به نظارهشان می نشستم و حسابی با هم دوست شده بودیم. از بودن در کنارشان لذت می بردم و آرام می شدم. شنیدن صدایشان روح به جانم زنده میکرد. دلم برای این اتاق در این هتل خیلی تنگ می شد. بوی سلماز را میداد جای جایش برایم خاطرات سلماز بود. گویی در این روزها همیشه با هم بودیم، حرف میزدیم وقت میگذراندیم و زندگی می کردیم. اما تأخیر دیگر جایز نبود. مادر و پدر هر روز زنگ می زدند و نگران بودند. اگر به خودم بود دوست داشتم روزهای بسیاری بمانم و با او خلوت کنم. نمیدانم شاید فکر میکردم این خلوت دو نفره ماست در طول روز ساعتهای دراز با هم حرف میزدیم بحث میکردیم حال دیگر درباره هر حرف ریز و درشتی من صحبت داشتم هر چیزی را نقد میکردم دربارهاش به بحث مینشستم و سلماست که همیشه پاسخم را میداد در همان دفترچه کوچک از خاطرات آن روزها به اندازه‌ی تمام زندگی برایم پاسخ گذاشته بود و زنده همیشه در برابرم بود تا پاسخ پرسشهایم را هر چی که بود از ریز تا دروش بدهد و حال بالاخر بعد از این روزها باید از این اتاق و این خلوتگاه خارج می شدم و دوباره پیش خانواده برمیگشتم دلم برای مادر خیلی تنگ شده بود چند باری دوست داشتم کنارم بود ولی خیلی زود صرف نظر می کردم. دلم برایش خیلی تنگ شده بود. دوست داشتم هرچه زودتر نزدیکش باشم و ساعتها در آغوشش بگیرم و بوسه بارانش کنم. میدانستم پدرم منتظرم است تا آرزویی تازه برایم تاازد و تعبیر آن رویا باشد. دلم برای خانه و خانواده تنگ شده بود. با توش که از این سفر جمع کرده بودم پیش به سوی خانه و خانواده بودم. به خانه رسیدم، دلتنگی جانم را با آنها در میان گذاشتم. تک تکشان را به آغوش کشیدم وقتی آراز را سفت در آغوش گرفتم و بوسه بارانش کردم سخت متعجب شد ما هیچ وقت با همچنین نبودیم از رفتار من حیرت کرده بود و باز همانند حالت سابق صوفی صدایم کرد ولی مادر او هم مثل من چه بسا بیشتر از من دلتنگ شده بود و این دلتنگی را با بوسه و در آغوش گرفتنهای گاه و بیگاهش بارها به من ثابت کرد پدر می آمد و در کنارم مینشست. از آینده می گفت آینده ای مپم که در برابرم بود حال ساعت ها بود روزها و ماه بود که دل به دریای دانستن سپرده بودم حال آماده بودم میدانستم نه همه چیز را ولی برای فریاد زدن و ایستادن و در راه بودن میدانستم و در کنار خانواده ای بود که تا حد جنون دوستشان داشتم و آینده که برای سالها تلاش کرده بودم در برابر تمام اینها سرزمینی بود در خون و التهاب مردمش فریاد داشتند هر روز در خیابان بودند و در پی احقاق حقوق از دست رفته چند هزاران ساله خود فریاد میکشیدند برای آمال و آرزوهایشان چه کسانی که از جان نگذشتند و من فرسنگها دورتر فقط نظارهگر این رشادتها و دلاوری ها هستم حال هر روز و هر سانی آنها را دنبال میکردم کارهای ریز و درشتشان، شوراها، همایشها، احزاب، سخرانیها، باورها همه و همه را زیر نظر میگرفتم. دل به ایران سپرده بودم و همیشه همه چیزشان را تعقیب میکردم. دیگر پدر و مادر هم فهمیده بودند میدیدند که تا چند اندازه مشتاق و در حال شنیدن اخبار و حوادث ایران هستم کوچکترین خبر از اتفاقات را دنبال میکنم. پدرگاه و بیگاه با من درباره ایران و ایرانیان حرف میزد. از شرایط و اتفاقات و آیندهایی که خودش هم دربارهش هت میزد، سخن میگفت. دوستاش نظر من را هم بداند. اما من ساکت بودم و تنها گوش میکردم. نمیدانم دلیلش چه بود. اما هیچ از خود بروز نمیدادم و تنها شنونده بودم. در تمام این روزها کودکان هم به من چشم دوخته بودند سلماز هم بود او هم در کنارم بود اما شاید در آن روزها از همهشان خجالت میکشیدم سرم را بالا نمیآوردم تا ببینم اشان. سرم را مشغول گوش دادن و دیدن و حوادث ایران کرده بودم از اتاق بیرون میرفتم به چشمهای مادرم نگاه میکردم با پدر وقت میگذراندم تمام صحبتها درباره هر چیزی به جز افکارم را با خانواده در میان میگذاشتم از هر چیزی گفتم تا ذره ای از آن افکار دور شوم. همیشه چهره و سیمای پدر و مادر در برابرم بود که به من چشم دوخته بودن راه چاره ای نداشتم باید در حالتی خودم را به آنها میرساندم. در این روزها بارها بی هوا به اتاق مادرم رفتم او را در آغوش گرفتم بوس بارانش کردم دلم گریه میخواست. دوست داشتم ساعتها در آغوشش گریه کنم اما امان از خودم که هیچ وقت به خیشتن چنین اجازه ای ندادم و ساعتها در آغوش مادر با خود و چشمانم کلنجار رفتم تا مبادا قطره اشکی کوچک از چشمانم جاری شود این روزهای دربدری و فکرهای ریز و درشت در حال ادامه بود صورتک های همراه هم بود به من چشم دوختند گاه سیمای پدر و مادرم بود گاه سلماز و کودکان بودند و گاه همیشان با هم نگاه هم می کردند. دوست داشتم در کنار پدر و مادر باشم به آنها چشم دوزم اما چیزی نگذشت که به نگاه های کودکان و سلماز دل بستم حتی سانیه ای نمی توانستم از آنها دور بشوم. خوب خاطرم هست در آن روزها با دوستان قرار میگذاشتم. گذاشتم بیرون می رفتیم تفریح میکردیم هر کاری که تا آن روز خیلی برایش شادی آور بود را دوباره تجربه کردیم کارهایی که خیلی از نظرم هیجان داشت مثل سقوط آزاد دوست داشتم تجربه کنم در این تابستان هر کار کردم تا همه چیز را فراموش کنم همه چیز را از خود دور کنم از تمام اخبار و حوادث دور شوم و همه چیز را به دست فراموشی بسپارم حتی برای سانیهی به حوادث ایران گوش هم نمی کردم همین گونه هم شد هر کار تازهی انجام می دادم. دوباره بازگشته بودم به دوران قبل به چند ماه پیش ولی خیلی افسار گسیخته تر و بی پرواتر خودم را غرق می کردم در دنیای از شادی و تفریح. در چشمهای پدر و مادرم نگاه کردم دوباره کتاب در دست گرفتم و درسهایم را مرور کردم چندی بعد ترم تازه تحصیلی آغاز می شد. می خواستم خودم را برای درس جدید آماده کنم. پدر و مادر با دیدن این روزها خوشحال شده بودند که دخترشان به زندگی خود برگشته. تمام اینها را می دیدم. شادی و خوشحالی پدر و مادرم را و چه شبها و روزها که با پدر بیرون رفتیم. باز هم تاعت دیدیم به کنسرت نشستیم. از رخسار بازیگران حرف زدیم و این بازگشتنم به دنیای خانواده هم بود شادی و عصب نشدنی این تابستان در حال پایان بود زمان شروع دانشگاه ها نزدیک بود و همه چیز زندگی در حالت معمول و معقولش پیش می رفت. در روزی و ساعتی که می دانستم هر دوی آنها خانه هستند از اتاقم بیرون آمدم در برابرشان نشستم از آنها خواستم تا حواسشان را به من دهند می خواستم از تصمیمم برایشان بگویم بالاخره بعد از روزها روزه سکوت را شکستم هرچند که زیاد حرف می زدم، اما حال لب به سخن راسین از دروازه های قلب گشودم به آنها گفتم که می خواهم به ایران بروم آنها صدایم را نمی شنیدند، با تعجب نگاه هم می کردند. مادرم نام ایران را چند باری تکرار کرد گفت یعنی yani چه که می خواهی به ایران بروی مگر چه خبر است؟ پدر فقط نگاهم هم می کرد آرام و شمرده گفتم میخواهم به ایران بروم و در تحولات شرکت کنم و بخشی از این تاریخ باشم پدرم به سخن آمد و گفت در تحولات حضور داشته باشی این حرفها چیست که می گویی توضیح دادنش خیلی سخت بود نمیدانستم دقیقاً دقیقا چه بگویم اما در آن لحظه تنها چیزی که به ذهنم رسیدیم بود که در برابر این شرایط من هم مسئولم مادرم گفت تو در برابر خانوادهت مسئولی، در برابر درس و دانشگاهت، تو در برابر آیندهت مسئولی و پدر که حرفهای مادر را تایید و تکمیل می کرد. صورت آن پدر و مادر در برابرم بود که ما من صحبت می کردند هر ثانیه دلیل و برهان می آوردند. هر لحظه چیزی می گفتند و از استدلالشان آسوده می شدند و به دل فرزند شش ای که در برابرشان بازی می کرد را میدیدند و از دیدنش لذت می بردند. دیگر چیزی برای گفتن بر زبانم نمی آمد. مادرم نزدیک شد مرا در آغوش گرفت. نمی دانم اینها سکوت ها و آن چهره مصمم باعث شده بود تا این اندازه احساس ترس کند. پدر هنوز هم حرف می زد. از ایران می گفت. از روزهای ملتهب، از اینکه غیر است اجازه دهد من به ایران بازگردم. لحظه ای به چشمان مادر نگاه کردم و غرق در نگاهش به دنیای پر از عشق و محبت او سفر کردم که چگونه پاره تنش را به آغوش می‌گیرد تا گزندی از کسی به او نرسد خجل بودم با هر دویشان صحبت کردم و گفتم در این روزها هر چه در توان داشتم به کار بستم از هر هربی کمک گرفتم تا به زندگی عادی برگردم گفتم در این روزها و همه روزهای زندگی چقدر به دستان پرمه راندو فکر کردم آرام نگاه هم کردند آرام برایشان از پدری گفتم که برآورنده تمام آرزوهایم بود از مادری گفتم که جانش را برای دیگری به قربانگاه می از پدری که فهماند برای آرزوی دیگران هم ارزش خائل است از مادری که تمام وجودش را با مر تقدیم ما کرد گفتم درس آزادگی را در مکتب خودتان آموختم درس ایسا را از جان را درس عشق را از شما آموختم شما تمام این راه را برایم هموار کردید گفتم که اینها آموخته های من در مکتب خودتان بود که آرام نمانم و خاموش نشوم برای آرزوهایم آرزوی دیگران را تباه نکنم به آنها گفتم که دیدم روحم قلبم پرپر پر شد گفتم که افسرده شدم و پجمردم گفتم از دخترانی که جانبرکف از همه چیزشان گذشتند، تا ما زندگی کنیم از همه و همه گفتم از فریاد مانده در گلویم از بغض این روزها و بغض مانده در گلوی همه انسانها به طول تمام سالهای زندگیم گفتم و سراخر بوزم ترکیت اشک میریختم دیگر نمیخواستم حسلش را نداشتم که جلوی عشقایم را بگیرم میخواستم عشق بریزم برای تمام آن کودکان دردمند به وسعت دنیایشان عشق بریزم به طول تمام این روزها که میخواستم در آغوش مادرم عشق بریزم و عشقها را به جان خوردم و حال عشق بریزم در زندان ها میان شلاق های مانده بر اندام سلماز عشق بریزم به حال مادری که تفت در شکمش سخت شد عشق بریزم به جنازه های مردم و آزادگان سرزمینم عشق بریزم عشق بریزم به حال جنازه های بی اسمت شده به این تخییر و تزویرها و ریاکاری ها به گلوله های سربی به اجساد بر روی هم به قبرستان لعنت شدگان به خاوران به وسعتش عشق بریزم آری عشق می ریختم. به طول سالیانی که عشق نریخته بودم می خواستم با عشق چشم این دنیای زشتی را بشویم و با خود به دور دست ببرم پدر و مادر با تحیر به من نگاه میکردند به سلمازی که از کودکی گریه نکرد و حال اشک می ریزد با درد به آنها میگوید میخواهد به ایران رود برای انقلاب کشورش تلاش کند میخواهد دوباره گلی رویده به مرداب شود میخواهد فریاد بزند میخواهد دل به دریا بزند و پدر و مادر که به کودکشان نگاه میکردند او چگونه بزرگ شد چگونه همچون پرنده ای آزاد شد و حال میخواهد که پر بکشد آنها به چشم سلماز پرپرنشدنی خیش را می دیدند که بال درآورده و آماده پرواز است تمام آرزوهایم در برابرم بود پدرم در آغوشم گرفت گفت پاره تنم چه اینقدر بزرگ شده ای؟ و مادر که تنها به آغوشم گرفته بود و بوسه بارانم می کرد عشق می ریخت پرسوز بالهایش را جمع کرده بود صورتک باز هم در برابرش بود بین پرواز و قفس گیر کرده بود حاضر بود عذاب بکشد روح و جانش به قفس در آید تا فقط آنان را شاد کند لیکن می که به زودی خواهد مرد در آن قفس در آن قفس بی آزادی در پی پرواز خواهد مرد شاید جسم زنده می ماند اما روح و جان مرده است اما صاحب قفس قفس را میگشود و پرواز او را نظاره می‌کرد می‌دانس اگر پرنده‌ای در قفس بماند همگان اسیر خواهد ماند حال که همه چیز را به آنها گفتم احساس بهتری داشتم سختن این روزهای زندگیم چندی قبل از آن اتفاق بود آن وانمود کردنها، بازی کردنها، به زندان خوب گرفتنها به درون سوختم و خاک سر شدم دلم فریاد میخواست، دوست داشتم با فریادم میله آن زندان را در هم بشکنم زندانی که خودم با احساساتم برای خود رقم زده بودم را نابود سازم آن روز بعد از آمدن از هتل و به شهر و خانه خود بازگشتن شروع این مصیبت ها بود. نگاه به صورت پدر و مادری که با همه جانشان برایت همه کار کردند و چقدر در مقابلشان تمام وجدانت درد می شود. آنجاست که حاضری زنده زنده خود را بسوزانی و آتش بزنی و من زنده زنده خودم را دفن کردم بر روی دنیایم و بران خاک ریختم. به دنیای گذشته پا گذاشتم دم بر تمام سختی ها را به جان خریدم اما مردم و پرپر پر شدم خودش با دستان خود داشت خیشتن را پرپر پر می کرد اما دیگر بازی نکردم چرا که نمی توانستم بی تفاوت در زشتی زندگی کنم همه در مقابلم بودند، سولما که با جان دردکشیده نگاه نگاهم میکرد، دختر کادامس فروش با همان نگاههای دنباله دار، من تصمیم گرفتم، میخواستم حقیقت را بجویم، به, به آنها گفتم همه چیز را، به من چشم دوختند و سر تصمیم گرفتند و به من گفتند وقتی فهمیدم و دانستم که هرچه چه فکر می کردم حقیقته است هرچه در این دنیا آموخته بودم از وجودشان بود وقتی با رفتن و رسیدن به آرزوهایم موافقت کردند همه چیز این دنیا را فهمیدم می دانستم که برآورده کننده آرزوهایم هیچگاه حاضر نیست خودش مانه و نابود کننده آرزوهایم شود مادر همه جانش من بودم حاضر بود هر سختی بکشد تا دخترش رها پرواز کند چندی بعد بیلی ترفتم به ایران را گرفتم حالا دیگر هدف در برابرم بود در آن روزهای پر التهاب ایران دیگر کسی به ایران سفر نمیکرد و من بودم که میخواستم به ایران بروم به سرزمین مادریم به جایی که متعلق به آن بودم در خاکی که بالو پر گرفته بودم حال میخواستم در همان خاک پرواز کنم حال می توانستم خود واقعیم باشم و به چیزهایی که باور پیدا کرده بودم برسم و برای آزادی از جانم بگذرم روزها در پیش بود روز رفتنم نزدیک و سختترین اتفاق زندگیم دوری از جانهایم بود اوایل خیلی افسرده شده بودند ولی اواخر حال بهتری داشتند شاید مثل من بازی میکردند پدر شوخی میکرد چیز را طبیعی جلوه میداد و مادر گاه, گاه عشق میریخت پدر را میدیدم كه هر روز خمیدهتر میشد و برادری که امروز موضوع برای او هم خیلی جدی شده بود حتی گریه های او را هم در اتاقم به نظاره نشستم من برای مبارزه آماده بودم و تنها نگرانی خانوادهام خانواده بود که چگونه با این مسئله کنار خواهند آمد کتاب فریاد اثر نیما احسواری بخش هشتم بارها و بارها به ایران رفته بودم هیچگاه چنین احساساتی نداشتم حالا هم برای خانواده دلتنگ بودم و هم برای خاکی که از آن دور مانده بودم دلم تنگ خاکم بود لحظه شماری می کردم تا زودتر پایم را بر خاک اجدادیم بگذارم دوباره در هوایش نفس بکشم هیچ چیز مثل سابق نبود هیچ خدام از احساساتم مثل سابق نبود دوباره همان مسیر بود همان خاک، همان راه همان راهی که بارها و بارها در زندگیم رفتم و سالیان بسیاری در آن خاک زندگی کرده بودم ولی حالا در این هواپیما و در این انتظار دلم برای ایران و ایرانیان می تپید حال خودم را نمیفهمیدم میخواستم به خاکی برسم که تک تک ذرات جانم از آن بود و برایش میخواستم از همان جان هم بگذرم. هواپیما به پیش بود وقتی خلبان اعلام کرد که وارد خاک ایران شده‌ایم ضربان قلبم ده‌ها برابر تندتر میزد نه فقط قلبم که همه وجودم می تپید. لحظه ها را مشمردم تا زودتر به فرجام برسد به فرجام برسد این دوری سخت و من به وسال خاک اجدادی برسم و بار دیگر تجدید ساخ کنم همان عهدهای دور را همان پیمانی که همراهان و هم همرزمان از دیر زمانهای خیلی دور بسند و حال من دوباره همان پیبند را با خاک خواهم بست و با خون جانم به راهش خواهم ماند که این پیمان به خون ما استوار است هواپیما ایستاد حال زمان گام نهادم بر روی خاک سرزمین مادریم بود وقتی برای اولین بار بعد از آن همه اتفاق پایم را روی خاک ایران گذاشتم دوباره زاده شدم جانم به پرواز درآمد. بوی مادر میداد این خاک کهن از جای جایش بوی مادرم مادران بیشمار سرزمینم را استشمام می کردم و جای بر پای پدران می گذاشتم و حال در این خاک پاک راه می رفتم. حال در همان راه هموطنانم را می دیدم همه ما محق به آزادی بودیم این تلاش چند صد ساله و شاید هزاران ساله بالاخره باید روزی به سرانجام برسد به همیهنانم نگاه می کردم. لبخند می زدم و پاسخ لبخند هایم را با لبخند از آنان می گرفتم. باز هم جملات پدر را به خاطر آوردم به راستی که مردم صبوری داریم مردمی که به طول این همه سال عذاب دیده و با هر رنجی سوختند و ساختند اما سر این کاسه صبر لبریز شد بیرون آمدند تا سرنوشت خیش را خود به دست گیرند و حال من با نگاه به اعماق چشم می میدانستم که دل در گروی آزادی دارند و به سودایش از همه چیز گذشتند و من هم گذشتم حال من هم یکی از آنها هستم ما همه از یک ریشه و برای یک خواسته ایم برای یک هدف مبارزه می کنیم و با دستهای خود این خاک را آزاد خواهیم کرد به سمت خانه مادریم در حرکت بودم مادر بزرگ مادریم خانه دلباز و زیبا داشت به سمت خانه آنها رفتم آنها حاضر نبودند به هیچ قیمت و تحت هیچ شرایطی از ایران خارج شوند داخل شدم به دیدار آنها رفتم بوی مادر را میداد او را به سختی در آغوش فشردم حال دیگر روز رهایی بود روز پرواز کردن روزی که منتظرش بودم باز هم تظاهرات بود از کمی قبلتر مردم برنامه‌اش را چیده بودند من هم از روزی که آمده بودم در تدارک گرد همایی مردم تلاش می کردم و کاری که در توانم بود را انجام میدادم. حال چه از طریق فضای مجازی و یا در خیابان و بین مردم دیگر خودم هم بخشی از این مبارزه شده بودم چقدر با هم نسلانم ارتباط برقرار میکردم برایشان محترم بود که من از خارج از کشور آمده و در کنارشان هستم هر روز تلاش میکردیم بیدارگری میکردیم و بیشتر از پیش مردم را با هم متحد میکردیم در همین نزدیکی روز تظاهرات بزرگمان بزرگ من در پیش بود شادمان بودم از راهی که به آن پا گذاشته و احساس رهایی میکردم. روز موود هم فرا رسید پر از شور و با اطمینان خاطر برای آرمان والایمان که آزادی و برابری بود به خیابان ها آمده بودیم. تعدادمان بیشمار بود، وجودم شور بود و هیجان احساساتی را تجربه میکردم که وجودم را به رهایی فرا می خاند. احساس همان پرنده آزاد شده از قفس که به آسمان سرزمین پرواز می کند و در میان این آسمان جهان و جهانیان را می بینم به مردم نگاه می کردم صورتشان خندان بود از هیچ نمی هراسیدند جماعتی را میدیدم که پر از شورند فریاد آزادی سر می دهند. رویا در سر دارند آرزو دارند مردانی میدیدم که هزاران سال بیگاری کشیدند مفت خارگان بر گرده هایشان سوار شدند و سوختند و ساختند اما امروز فریاد می زدند و لرزه به جان دیورویان و دیو پرستان می انداختند. میدیدم دیدم بیشمارانی را که به طول هزاران سال مورد شکنجه و عذاب قرار گرفتند به جرم فکر کردن، باورداشتن، حرف زدن، آرزو داشتند می دیدم که زبان از کامشان بیرون کشیدند، به دارا ویختند، سوزاندند اما باز زندند، از پای نمی نشینند و برای آزادی خیش و دیگران به میدانند آنان شور و شجاعتند و جماعتی در جای جای کره خاکی از بودن و داشتن چنین آزادگانی به خود میبالند باز هم در آسمان این سرزمین کهن که پرواز می کنم و پیش میروم در آن دوردست ها گلی روییده است زیبا میان مرداب تنهاست ولی مغرور گل همیشه بهار است هیچگاه پرپر پر نشده و نخواهد شد تا آخر جهان در جایش استوار خواهد ماند آمدند دورش گردند در تمام این سالیان در کنارش به خیشتن بالو پر دادند گاه بالاتر و بالاتر رفتند از او هم بالاتر در جایگاهی والا نشستند بعضی دوروبرش را کردند بعضی با همان ذات و سرش دورش را پر کردند و بعضی خود به سیمای او نشاندند و جای بر جای پای او گذاشتند هرچه بلد بودند کردند به سودای آنکه گل پرپر پر نشدنی را پرپر پر کنند هرچه داشتند کردند اما افاقه نکرد مرداب به جایش بود آنها نتوانستند به جای بمانند از جای برداشته شدند به درون مرداب کشیده شدند و از مرداب شدند و سرآخر باز هم چیزی در میان مرداب نماند جز گل همیشه بهار که هیچ کسی آرای پرپر پر کردن او را ندارد از دور دست به من نگاه می کرد چشم به هم دوخته بودیم آرام بر گوشه لبانش لبخندی جا گرفت و به من هدیه داد زیبایی و عشق را به وجودش چشم دوخته بودم و محوه زیباییش بودم که ناگهان مرداب را فرا گرفت گل های فریاد زدند زیاد و زیاد و زیادتر شدند و منی که پلک می زدم و گل گلهای زیادتر می شدند سراخر مرداب را فرا گرفتند مرداب را به گلستان بدل کردند و این خاک گلستان شد گلستانی به وسعت تمام جهان و همه آدمیان دورترها باز هم میدیدم سرزمین مادریم خاک اجدادیم را که چگونه هزاران سال عذاب دید و رنج کشید و هیچ نگفت و باز هم جهان در پیش بود ظالمان قدرت میگرفتند و عذاب میدادند باز هم چشم بر خاک اجدادی گریست سرآخر از دیدن این همه مظالم دیوانه شد سر به بیابان گذاشت دوست نداشت ببیند از رنج مردمانش عذاب میکشید پس چشمانش بست به خواب رفت که نه چیزی ببیند و نه چیزی بشنود خاکمان در خواب بود و مردمان هم به طبع از مادر چشم بستند و خوابیدند عذاب دیدند هر روز عذابی به وجودشان به زندگیشان جاری بود خود به خواب زدند لب از لب نگشودند و در این عذاب مادر و فرزند ایران و ایرانیان همه و همه خوابیدند و به خواب رفتند تا سرآخر از خواب برخیزند خودشان قاستند خودشان برخاستند. کسی نمی توانست به خواب زدگان را از خواب بیدار کند پس خیشتن خواستند که برخیزند و به پا و در جنگ باشند مادر دید این همه هیجان و شور را این برخواستن و آزادگی را حال نوازش های شاعرانه مادر را بر رخسار فرزندان می دیدم. به آغوش کشیدن ها را می دیدم. به یاد مادرم بودم مادرم همینجا بود در قلبم نزدیکتر از همیشه و حال زمین ایران همه و همه ما فرزندانش را به آغوش کشیده و به خود میبالد باز هم میدیدم چگونه ایران سرزمینی شد زیبا به دور از هر گونه زشتی کودکان آزاد بودند بازی می کردند. هر روز آرزو بر آرزوهایشان افزوده می شد. قانون و غذا حکر فرما بود دیدم که چگونه قدرت و قدرتمند کوچک و کوچکتر شد تا سرآخر از بین رفت فقط ادالت باقی ماند می دیدم چگونه آزادگان هر روز هر کجی و زشتی را نقد می کنند و چاره ها می جویند و چگونه همه در راه عملی شدن این آرمان بیشتر می کشند و این کشور پویا در حال پیشرفت و دگرگونی است و آزادگان این وظیفه خطی را به دوش گرفته و در راهش تلاش می کنند. حال مادر ما بود که به جهان این هدیه شیرین را ارزانی داده بود باز در دورترها دیدم چگونه سرزمینی شدیم همه و همه در این سرزمین آزاد بودند زنان و مردان کودکان و آزادگان انسانها و حیوانات و نباتات همه و همه آزاد بودیم همه جان داشتند کسی آزار نمیدید قانون آزادی جا بود تمام اینها را میدیدم و سرزمین مادری و جهانی که شاد بود جاندارانی که همه در این رهایی آزادانه زندگی می کردند و هر روز از پیشترشان پویاتر و موفقتر بودند و پیشرفت بخشی از وجود زندگیشان شده بود همه را می بینم. همه ایستاده و یک صدا فریاد میزنند و پیش می روند. میانشان دختری می بینم که تمام آرزوهایش را به چشم دیده رویاهایش را به دنیای واقع در بیداری و میان فریاد دیده و برای همان آرمان فریاد میزند. نزدیک می شدم. در چندی از او شدم همه از هم شده ایم. همه یک روحیم یک جانیم یک آرمانیم همه یکی در جانهای بیشماریم و آرمانمان من هم است آزادی و فریادمان من یکیست و حال من در دختر و یا دختر در من همه و همه یک صدا فریاد میزنیم. آزادی، آزادی، آزادی.